نده در تاریکی نویسنده ولادیمیر ناکف مترجم امید نیک فرجا تنظیم برای رادیو رضا جابرانساری بازیگران به ترتیب اجرا فریبا متخصص رضا عمرانی حسین فلاح انگامی محمودی محمد یگانه سعیده فرزی آشا مهرابی احمد گنجی نوشین حسنزاده زاده شهرزاد عبدالحق عبد کمالی مهین نصری بهرام سروری نژاد علی تاجمیر امیر جوشقانی سیما خوش چشم محمد آقا محمدی بهروز مسروری ناهید مسلمی عباس توفیقی محمد حسن اشقیان عزیزم لازم نیست قد خودتو اذیت کنی من مطمئنم که تو بالاخره یه راهی براش پیدا میکنی آره الیزابت عزیزم میدونم بالاخره یه راهی براش پیدا میکنم، حتما پیدا میکنم اما اما این یکی این طرحی که به ذهنم رسیده یعنی از جای الهام نگرفتی منظور چیه هیچی هیچی آخه تو خودت هم میگی که بهترین افکار آدم طرح‌های نو یکی به ذهن آدم میرسه من با... خیلی هم گفتم هنوزم هم معتقدم ولی میگم که افکار و طرح‌های نو بالاخره در پس ذهن آدم اینجایی که آدم همه اطلاعات خودشو بایگانی و ذخیره میکنه همیشه جای پایی از ایده ها و نظرات دیگران وجود داره که به آدم در خلق ایده نو کمک میکنه اما این ها کی... مثل بچه خودته ها الویناس عزیزم با همه این حرفا من میگم یعنی نمیدونم که این یکی تو را حساس کرده خودم هم درست نمیدونم ولی ولی فکر میکنم این یکی با همی ایده ها هم فرق داره. یه جورایی خیلی نوعه همش مال خودمه. من زدم فکر بشه از اول تا آخرش. خب طبیعیه که حساسیت منو برمی‌انگیزه. رو خود به خود بیشتر میکنه و بالا می میاد. تو با این حرفا منو حساس کردی. عزیزم شدیدا مشتاق شدم که بدونم اون چیه برام تعریف کن. نه؟ نه؟ چرا؟ خب صبر میکنی تا پولم بیا. چون مطمئنم که اونم ازم میخواد که براش تعریف کنم بنابراین هم انرژی ذخیره میکنم هم... هم چی؟ راستی پول دیر نکرده چرا؟ بعد از ظهر تلفن زد و گفت که جایی کار داره کمی دیر میاد این برادر شما نمیخواد دست از این مزاهمت هر شبش برداره و... کمی خودمون اینجوری زهره. حرف نزن اون عاشق خانواده ای ماست نه اونم مثل خیلی از آدمای مجردیه. مجردی آره مجرد مثل خیلی از مردای مجردی دیگه میتونه شبه خیلی خوب خیلی درخور خش... نشو الیزابت شوخی کرده <تصفح> میدونم که شوخی میکنی <تصفح> میدونی که پول چقدر به تو احترام میذاره خیلی هم دوست داره آه. اون میگه لذتی که از با ما بودن میبره رو در هیچ جای زندگیش <تصفح> <تصفح> تجربه نکرده منم اونو دوست دارم عزیزم باور که من خیلی گرستم الان به فریدا میگم که میزشامو بچینه تا چیدنی میز تموم بشه پلم پیداش میشه راستی ایرما کجاست؟ تو اتاقش داره با عروسکاش بازی میکنه برو هم بگو فریدا بچینه. هم ایرما رو بیار که یه کمی باش حرف بزن این دختر خوشگل من با اینکه هشت سالشه خیلی باهوشه من که از داشته نه همچین دختری سر تا پا غرورم اگه بدونی چه بازیایی با عروسکاش میکنه عین خوب برو بیارش ولی من خواستم بگم که یه خورده زیاد از حد چاق شده نگو شاخ به ناز دختره فقط یکم توپولی همین که اینا برای دختری به سن اون بیشتر نمکیش میکنه آره فقط میگم که این توپلی همچین تا تو 15 سالگی ادامه نداشت نگرا نباشه عزیزم خیلی خوب برو تا پول نایماده بیارش چون اون اگه بیاد دیگه نوبت به من همین ندار رفتم که هم به فریدا بگم که میزو به چینه هم ایرما رو بیارم آه راستی دو نفر امروز بعد از اون زنگ زدن ظاهرا قرار بوده که در مورد تابلوهای های نقاشیشون نظر بده آه اما آن از دست این نقاش های جوان مگه افکار و آدم خودش برسه. <سخن> الیزابت، اگه باز زنگ زدن یه روز دو هفته آینده، چه میدونم؟ مثلا دوشنبه یا سه‌شنبه بگو بیان دفتر. <سخن> اونا میگفتن خیلی وقتش. می کیو... <سخن> می ولی خوبه که خودت در جریان کارای من هستی. عزیزم، بهتر نیست که دیگه شماره تلفن خونه رو به شاگردات ندی؟ مگه نمیتونن تو دفتر با تماس بگیرن. چرا؟ چرا؟ باشه همه اه، کارو می‌کنم. حالا دیگه اگه حرفی نیست، لطف کن برو. با. باشه عزیزم، رفتم.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 <تصفيق> نمی خوای به ما بگی که امشب چرا دیر کردی؟ داشتم از گرش می‌گفتم. من به الیزابت گفته بودم. آره گفته بودی که دیر میای و با جری بری. اما نگفته بودی کجا و کی شاید پولیس نداشته باشه. چرا چطور بنده موظفم که هر سوالی ایشونو در مورد کارم و اینکه چه می کنم و اینجوری حرفا جواب بدم؟ ب <تصفيق> آخرین کلمه ممکنه در مورد موضوع مورد سال از ده من شنفته و خیالش راحت نشده دستاصلم بر نمی راستش مرستش مراستش با یکی از دوستان مثل شیخی میکنه تو مجبور می نه نه نه, نه. اشکالی نداره اشکالی نداره با یکی از دوستان اه. اه با یکی از دوستانم البته یکی از دوستان قدیمی قرار ملاقاتی داشتم ها یا مزکر اون یکی از همکاس های دوره دبیرستان من بود ام. البته پسر. <تصفيق> <تصفيق> خیلی وقت بود یعنی سالها بود همدیگر رو ندیده بودیم دو سه روز پیش تصادفاً با هم برخورد داشتیم به نظر تو جالبه البته اگه دوران دبیرستان اولا دوران خاص با مسائلی خاص روابطی خاص بوده باشه دومن این که اون شخص در حال حاضر چیکار است؟ زندگیش تو این چند سال چگونه گذاشته؟ ساده یا حوادثی رو از سر آیا موضوعات جالبی برای تعریف کردم یک دوست قدیمی داشته باشه یا نه؟ اون وقت میتونه دستمایی یک نوشته یا یک نمایشنامه یا فیلنامه یا حتی یک تابلوی نقاشی آو نه دیگه تا این اندازه ما فقط از دیدن همدیگه خوشحال شدیم همین گفت خونه بله مم. پس اونقدر سمیمی نبودید مم. یا از دیدن اونقدر هم خوشبال نشده که شام دید چرا چرا اتفاقا خیلی هم اصرار کرد اما اصلا دلم نایمد که لحظات در کنار شما بودن و به هیچ قیمتی از دست بدم چه خواهش میکنم مخصوصا اینکه که شدیدن مشتاق شنیدن تره جدیدتم بودم تر؟ آره خودم تر؟ الیزابت بعد از هوری پشت تلفون یه چیزایی بهم به گفته آه، آه، آه، البته یادم رفته بود که میدونی پول چی رو که یکی از چیزایی که سر مسولنی رو به باد داد چی بود مسولنی؟ نه مسولنی یه نامه بسیار مهرمانی رو به هیتلر می و براش می فرسه خب از اون جایی که همسرشو خیلی خیلی دوست داشته مم. و مورد اعتمادش هم بوده موضوع نامه رو به اون میگه مم. قافل از اینکه برادر خانم با متفقین سر و سری رید من خواهش میکنم. تو چرا امشب با پر اینجوری حرف میزنی؟ خوشحالم که نه تو مسلینی هستی و نه من جاسوس متفقین اینم بگم اگه با این حرفا میخوایی منو از شنیدن طرح جدیدت منصرف بکنی باید بگم سخت در اشتباهی جناب آه. الوینوس مم. شوهر خواهر گرامی مم. جنابالی چه بخوای و چه نخوای محکوم به تعریف کردن طرح خودتون برای من خواهید بود آه پو پو سخت تحت تأثیر قرار گرفتم <تصفيق> و چون میدونستم که همچین بلایی یعنی همین تحت تأثیر قرار گرفتن به سرم میاد <تصفيق> در برابر اصرار خواهرت مقاومت کردم تا در حضور برادرزن عزیزم در مورد موضوع مورد اشار حرف شدنم هلینوز تو جدن که دوست دشتنی با نمید باحتمان به داشتن همچی شواری افتخارم میکنم نه البته عزیزم میگم میگم حیف شد که ایرما کوچولو امشب اینقدر زود خوابید خیلی هم زود نیست فالا عزیز اون تفلک خیلی هم چشم برای جنبالی موند چون خیلی برسته بود و مثل ما آدم بزرگا نمیتونه صبر کنه بعدم ساعت خوابش رو عقب بندازه این بود که الان تو تختش به هر حال من از بابت امشب خیلی متاسفم. سعی میکنم دیگه با هیچ کس در این ساعتها قراری نزد واقعا من نمیدونم که خونه ی خوهرم نبود شبامو چجوری باید میگذروند راستی پول عزیزم تو چرا ازدواج نمی کنی؟ راست میگه با اضافه شدن همسر تو وای چقدر حالی اصلا حرفشم باید. نزنید که در حال حاضر آمادگی تنها کاری رو که ندارم ازدواج کردنه وا. اصلا فکرشم نمیکنم. میشه بگی ما چگونهی کردی؟ ببین اله عزیز بهتره به جای پرتاب کردن حواس من و حرفای خودت به این طرف و اون طرف لطف کن جدید جدیدتو برام بگو وا. آره، راست میگل زود باش شروع کن آه. باشه خب بگو سوالا چاره نیست مثل این که هیت جوری نمیشه از دست شما خر و برادر خلاس <تصفيق> اینو باید قبل از ازدواج با الیزابت فکرشو کردیم. آه من هر یک شنبه از خداوند به خاطر خانواد و همسری که نصیبم شده تشکر میکنم مم. و آرزو میکنم که این خوشبختی ما همیشه گیو دائمی باشه <تصفيق> حالا بگو باشه ببینید. من چند شب پیش که به ذهنم برای دور شدن از تخیلات و ساختن تصاویر بکر استراحت داده بودم خواه؟ و داشتم مقاله کوتاهی در باب هنر سینما می نوشتم این فکر بکر رو زیبا به سراغم آمد این فکر بیشتر شبیه به نقاشی های مترک و رنگی که این روزا باب شده فکر کردم که چقدر خیره کننده می شد اگه کسی می تونست این شیور رو روی تابلوی مشهور ترجیحن از مکتم هلندیا پیاده بکنه م? و اون روی پرده با رنگهای شفاف و واضح کاملا بازافرینی بکنه و بعد حرکت در بیاره <تصفيق> حرکت رو حالت به روشنی و کاملا هماهنگ با شکل ثابتشون در تابلو بست پیدا بکنه مثلا مثلا میخونه ای رو در نظر بگیرید با آدم های کوچکندان که پشت اه؟ میزای چوبی هر ایسانه می با حیاتی آفتاب دیر پس های زین و بردار که همه یه حسن میشن اون مرد قرمز لیوان بزرگ آبجاشو می ساره زمین خب دختر سینی به دست خودشو آزاد میکنه. مرگی که در آستانگی در قرار داره شروع به نکسده زدم میکنه اخه. بعد میشه اینطوری ادامهش داد که آدمای کوچیکندان بیرون بیان و بعد از وسط منظره همون نقاشی عبور بکنه منظرهای با شاید شاید آسمان قهوهی و یخ زده. و مردمی که با اسکت های عجیب و غریب که این روز مد شده در پیچ و های کهنه درون تصویر سر میخورن با جادهی مرتوب و مهالود و دو سوا mm. mm. و در انتها بازگشتن به همون میخونه بازگردوندن تدریجی شخصیتها و نور به دقیقا همون نور اولی به تعبیری آروم کردن اونها و به پایان رسوندن اون با تصویر اولیه به حالی مثل همیشه به آره آره آره ولی من نفهمیدم این بود کارتون اینو بهش میگن کارتون خواهر عزیزم خب بعد بعدش بعدش چی بگو بگو یعنی چی بعدش منظورم اینه که قصه چیه چه قصه ای داره این این این یه حرکت نوعه در واقع فکر من اینه که تابله های نقاشی به جای اینکه ثابت روی دیوار باشن عراسور تشکیل دهندش جون بگیدن حرکت داشته باشن در واقع یک تابله جاندار آره آره گمون کنم تازه گمون کنی؟ نه نه چلو چرا متوجه شدم خب حالا خودت میخوایینو بسازی؟ نه نه پول من نه وقتشو نه. یعنی کار نداشی برای من از همه چیز عرجه تره میدونی آره میدونم میدونم خب حالا میخوای چیکار کار کنی عزیزم؟ خب فعلا با یه تیه کننده یه قراری گذاشتم چند روز دیگه براش من فکر میکنم برای سر و دست چون <تصفيق> <تصفيق> کاملا شدنیه منطقه باید خوب یعنی خیلی خوب تهیه کننده رو شیفهم کرد. چون تیهی کننده همیشه یعنی عادت دارن که همیشه در برابر افکار نو از خودشون مقاومت نشون بدن اما وقتی که تو خوب براشون موضوع رو شکافتی کم کم نظرشون جلب میشه و بعد هم خب معلومه دیگه با کله اونو از دست تراح میغابم ولی من حواسم جمعه پسر حواسم جمعه فکر میکنی بذارم به این راحتی کسی سرم کلاه بذاره هنوز کمچه آدمی پیدا نشده. من در موفقیت تو کوچه ترین البته منم همینطور ولی خب دنیای سینما و تصویر یه مقدار با دنیای ندباشی متفاوته که ما میکنم آدم در توضیح ترهاش و برقرار کردن ارتباط بین ذهنیت تیعیه کننده با ذهنیت خودش تلاش خیلی زیادی رو باید میکنه البته که همینطور پول تو فکر میکنی تا وقتی من یه ترد دارم اونا میگن خب ما میخوایی زحمت داره خیلی از زحمت داره من که بی منتظر شنیدن نتیجه ی جلسه توپ با اون تاییه کننده است فقط همینطور من یعنی به زودی همه چی معلوم میشه البته تجربه به من نشون داده که اصلا و ابدا نباید عجله کرد خب هم که صرف شد نگم بهتر بریم تو پذیرایی و بقیه عرف رو اونجا بزنیم آره آره من موافقم فریدا بله لطفا میزو بریم جمع, بریم. جمع کن چش. ما میریم توی اتاق پذیرایی برای ما چای بیا بریم. یلیلی نداره که تو اینقدر خودتون ناراحت کنی زن ای کاش همون خواستگاری اولی که اومد شوهرش میدادیم و میرفت سر خونه زندگیش <صحیح> خواهش میکنم، خواهش میکنم دوباره این موضوع رو پیش نکش. مگه دروغ میگم. گم اما زن دغزه تو شد به جای که ترغیبش کنی که بچسبه به زندگی شو یکی از او خواست که داره اندقاب کنه ببین عزیزم دیگه کاری از دست من و تو ساخته نیست یعنی از اولشم نبود این تو بودی که باعث شدی کاری از من و تو ساخته نباشه حالا مگه اتفاقی افتاده که تو این اینقدر داری هرس و جوش میخوری دیگه چی میخواستی بشه وقتی تو اینجوری خون سرد و بیخیال با این موضوع برخورد میکنی هرس و جوش من چند برابر میشه چی کار کنم ها؟ چی کار کنم؟ اون دختر راه خودشو انتخاب کرد که چی؟ ها؟ که چی؟ یا چیکار کار کنه؟ که بره توی شهر قریب آواره بشه؟ که بره با معلوم نباشه چه اتفاقای ممکنه درش میافته؟ دست دادی اید دادش دست بس که داری گریه میکنی <تصفيق> این تقصیر من یا اون نیست که من دیگه بیشتر از این چیزی بلد نیستم یادش بدم. ای کاش از همون روز اول که قلمو رو دیدی دستش با هر بدبختی که بود جلوشو میگرفتم هر خطی که میکشید روی کاغذ یا دیوار از خوشحالی پر می آوردی. خب همه نورا شده بود که چرا برادرش چنین ای نداره. همه خوشیتم شده بود علاقه با استعداد مارگو تو نقاشی. ای خدا دختر نازنینم داره از دستم بس کن زن اون با روحیه حساسش که این گریوزاریه تو رو ببینه ممکنه تاثیر بدی روش بگذاره نازاره ای مرد امکان نداره اون تصمیم خودش رو گرفته و دیگه نه من و نه تو و نه هیچ کس دیگه نمیتونه جلوشو بگیره من تو بهتره که با این واقعیت خیلی منطقی روبرو بشید بذار فکر کنه پدر و مادرش مثل همیشه پشتیبانش چی جیکش تو یا اصلا نقاش نبودی خب. یا اونقدر بلد بودی که اون لازم داشت و یادش میدادی موضوع فقط این نیست اگه اینجوری بود که میشد بالاخره مسئله رو یه خاکی تو سرش کرد خب پس چی این نیست؟ یه هنرمند همیشه دنبال فضا و جایی میگرده که در اون دیده بشه ام. بتونه خودشو کارشو عرضه بکنه ام. ایده و الهام بگیره ام. کارشو مورد نقد و بررسی دیگران قرار بده اوه. فقط یاد گرفتن یه هنر کافی نیست که صاحب هنر و هنرمند و ارضا میکنه شه. تو رفتی سراغ حرفای خودت خب آخرشم میرسی به اینجا که اگه تو یه جایی غیر از این بیگولوی پرت و دور افتاده مثلا تو پای تخت یه شهر بزرگ بودی اینجوری میشدی اونجری میشدی مگه دروغ میگم اون وقت لابد منم که یادم معمولی بودم و نقاشی و هنرم سرم نمیشد به درد دردتون یواش یواشتر در. چه واسه خودش میبار و میدوزه <تصح> عزیزم. اگه الان میشه به من گفت یه نقاش درجه چند همش به خاطر علاقهی بوده که تو نسبت به تابلوهای من از خودت نشون دادی یادت نرفته که حکیم میتونستم آخر کار من تو به اینجا میرسه که جگرگوش همون ترکمون کنه و بذاره تو یه شهر قریب و دور هیچ وقت با دزدواش میدونم <تصفيق> می که این حرف از تای دلت نمیزنی <تصفيق> ولی قبول کن که مارگو دختر خیلی عاقلیه اون, اون میتونه از خودش مراقبت کنه خب ببینم <تصفيق> مگه جلوی منو تو رو گرفتن که هر از چند وقتی بریم و بهش سر بزنیم ها؟ هر از چند وقتی؟ بله چند وقت نبیدونم بار چند سال بار دلم میگه گوش آخی... به حرف دلت نده عزیزم ببین بهتر نیست حالا که من و تو نمیتونیم جلوی رفتنش رو بگیریم اقلا کاری کنیم که با یه روحیه خوب و با یه دل خوش از ما جدا بشه ها؟ از خودم که من مطمئنم که اگه تو هم مثل من فکر میکردی هر جوری بود نظرش رو عوض میگردی خواهش میکنم آنا خواهش میکنم اینقدر خودتو اذیت نکن عزیزم باشه خیلی خوب هرچه تو بگی هر جور که تو به مارگو بخوای بلند شو بلند شو برو یه آوی به سر و صورتت بزن که دیگه الان سر و کلش پیدا میشه بلند شو عزیزم بول بلند شو در؟ من نمیدونم که مدر برای چی این همه ناراحته نگران نباش دخترم اون اون همیشه نگرانه من اصلا ندارم که باعث ناراحتی شماها بشم من که اصلا ناراحت نیستم نه برعکس خیلی هم خوشحالم گفتم که مادرت همیشه نگران تو و برادرته خب این طبیعیه البته نه اینکه من نگران نباشم یا اینکه سرنوشت شما برام اهمیتی نداشته باشه ولی خب مقاومتم از مادرت بیشتره در واقع میشه گفت که یه مقدار منطقی تر از اون فکر میکنم ولی من درم میخواد که مادر واقعا با رفتن من موافق باشه <تصفيق> گفتم که تو اصلا نگران نباش اون ته دلش موافقه ولی خب نگران دیگه میدونی البته اون تا حدودی هم حق داره البته نه در مخالفتش با رفتن تو میدونم اون از این نگرانی که مبدعه وقت بلایی سر من بیاد <تصفح> البته این موضوع ساده ای نیست دختر ولی من دیگه بزرگ شدم 17 18 سالمه 17 یا 18 اینجا دخترایی هستن که تو این سنوسال چند تا بچه دارن خب این تقصیر منه نه دخترم نه حرف من این نیست چیزی که مادر تو همچنین, همچنین منو ناراحت میکنه یا در واقع نگران میکنه اینه که مردم اینجا که تو هم جزئی از اونا هستی ترز و سطح فکرشون با مردمان شهر به خصوص پایتخ متفاوته خیلی هم مردم اینجا آدمای خیلی ساده ای هستند و تو هم منم خود چیکار کنم؟ موضوع کاری که تو میخوای بکنی نیست دخترم و بعضی وقتا دلم میخواست که ای کاش ای کاش این همه این همه علاقه به رشد تو در امر هنر رو نداشتم. من که نمیفهمم. تو دختر عاقلی هستی، اینو میدونم و در ضب خیلی هم زیبا. ترس من اینه که عقل عقل تو برای حفاظت از زیبایی و حریم و حرمت شخصید کافی نباشه. آ پدر عقل من حرمت من زیبایی من چرافی به کار نقاشی داره ام. من میخوام هرچی که هست هر هرچی که مربوط به نقاشی هست و یاد بگیرم هرچی که هست ای کاش, ای کاش. ای کاش اگه من به سن تو بودم این تصویر تو رو میگرفتم و خودم خودمو به شهر یا جایی که چیزای بیشتری یادم میدادن میرسوندم. هالهان. پدر من منظورم اینه که... میفهمم میفهمم میفهمم تو چه منظوری داری اه اه یکی از زلایلی که خودم تشویقت کردم که به شهر بری شاید این باشه که خودم و جای تو یا تو رو جای خودم حس میکنم. شاید دلم میخواد که اون اغدهی رو که موندنم اینجا تو دلم ایجاد شده و دیگه قدرتی برای باز کردنش ندارم و توسط تو باز کنم همین عارضون بود که برادرم البته این آرزو هیچ رپی به نقاش شدن و یارفتنیتون نداره خواهش میکنم با مادر حرف بزنید اون اگه اینجوری ناراحتی بکنه من شاید اصلا شما گفتم که تو اصلا به فکر مادرت نمیتونم؟ از شما چه برون من بعضی وقتا از رفتن خودم نگران میشم به خاطر همین حرفا آشنا نبودم با محیط شهر با آدماش بخودم میگم شاید دیگه منم مثل خیلی از دوستام ازدواج کرده بلنم. دیگه وقت فکر کردن در مورد این حرفا نیست البته خوبه که تو نگران باشی همین نگرانی باعث میشه که خوب رو جمع کنی دخترم خیلی خوب خیلی خوب دیگه کافیه به اندازه کافی حرف زدیم تو فردا باید حرکت کنی برو بورو هم وسایل جمع کن هم از دوستات خدافی کن که تا فردا وقت بیشتری رو کنار هم دیگه داشته باشیم در ضمن نام نوشتن اون هم به طور مرتب و فراموش نمی‌کنی چش به در حتما به معزه رسیدن به شهر میری به آدرسی که داری اه. به سرموی من آدم خیلی خوبیه البته حتی اگر هم اصرار کرد پشت اونا نمی‌مونی قراره که جایی رو برای موندن پیدا بکنه و... و گمون کنم تا الان این کارو کرده میگه خونه هایی هست که دخترای جوون و پانسیون میکنن اگه پیش به سرمونتون بمونم چه اشکالی داره؟ اون وضع زیاد خوبی نداره منظورم از نظر مالیه خرورشم قبول نمیکنه که از تو پول قبول بکنه البته چون میدونم که ناراحت میشه من به خودم اجازه نمیدم که بهش پیشنهاد پول بکنیم بنابراین بهترین کار همونیه که گفتم در ضمن اون پیله باید آرامش داشته باشه مسئولیت مراقبت از یه دختر جوون براش مشکله در ضمن خیلی مراقب پولات باش هر وقتم که پولات تموم شد برام نامه بنویس فقط فقط فقط چی پدر؟ آه... برگشتن پیش ما رو فراموش نکن. آ پدر هرگز. من به محص اینکه که موندرم تو شهر کافی بود بلا فاصله برمیگرم مطمئن باشی اینو میدونم فقط یادت باشه که به جز من و مادر و برادرت یه نفر دیگه هم چشم راهته منظورتون آرفریده؟ میدونی که اون تو خیلی دوست داره میدونم پدر ولی... ولی, ولی چی؟ نمی اونجوری که اون به رابطه منو خودش فکر میکنه من... تو که اونو دوست داشتیم؟ آره. اون منه خیلی پسر خوبیه نگیرش علاقه ای نداشته باشم اما... اما... خب اما اون چرا باید تو برگشتن من سب کنه؟ برگشتن که معلومی چند سال طول بکشه؟ این حرفو نزد دخترم. به قول خودت معلوم نیست که تو چند سال دیگه برگردی فرض کنی پنج سال، هفت سال یا حتی ده سال مم. اون وقت میدونی تو چند ساله شده؟ فکر میکنی کسی میمونه که برای ازدواج با تو مناسب باشه؟ شاید باور نکنیم پدر ولی من به تنها چیزی که فکر نمی کنم ازدواج الان شاید اما چند سال دیگه که تو به چیزایی که میخواستی رسیدی چی؟ خودم و وقت آموزش و هنر به دیگران میکنم این بازم کافی نیست؟ پدر، میچ خوش کنم دیگه این حرف رو تموم کنی؟ باشه دخترم، باشه. ولی ولی اگه یه چند ای با آلفرِد حرف بزنی بد نیست. آه. خوب نیست که آدم به احساسات دیگران نسبت به خودش توجه باشه. در ضمن اگه قراره حرفی هم بهش بزنی خودت روشن و صریح بش ببین. آره پدر، اینطوری بهتره. نظر واضح خودمو بشنوه بشنبه از زبون خودم خیلی بهتره <مشتراح> میدونی پدر مثلای مهمی که این وسط وجود داره اینکه که آلفرد با هنر من خلقا باشه باشه حرف میزنم <تصفيق> خب پس بلند شو رابیوف که وقت کم داریم امشب خیلی حرفا داریم <مشتراح> که باید بزنیم برو دخترم برو باشه پدر فیلن خدافید خدافید <تصفيق> سعی میکنم خیلی زود بر کردم. <تصفيق> سلام خانم، من اکسل من هستم سلام آقای اکسل، خیلی خوش اومدی من با آقای قرار ملاقات داشتم بله، بله آقای من، ایشون مشتاقانه منتظر شما هستم متشکرم میشه لطف کنی البته، چند احسا تشریف داشته باشین خواهش میکنم قربان، جناب اکسل من تشریف آوردن بله، حتما بفرمایید آقای من آمد شکرم جناب مام خیلی خوش مادین بفرمایید خاش میکنم سلام آقای البیناس دیر که نکردم هلگز دقیق و سر وقت مثل کرفهی بردسته بفرمایید بفرمایید بینشید خاش میکنم بچه کرم یه خانم باشی؟ قهوه لطفا من خیلی مفتخرم که شما دعوت منو قبول کردید و به دفتر من اومدید البته هر جای دیگه ایم که شما میفرمودید من با کمال میل خدمت میرسیدم ابداً فرقی نمیکنه آقا مهم انجام کاریم بله البته خب جناب من میتونم بپرسم که شما طرح منو مطالعه کردید؟ بله با دقت تمام آه. خیلی لطف کردید واقعا شما در میون تمام تهیه کننده که من امروز باشون برخورد داشتم یک استثنا هستید مرچان که خود من در زمینه تهیه کنندگی هم فعالیت میکنم بلی... شما لطف دارید میدونید جنب من همونطوری که تلفنی خدمتون عرض کردم علاوه بر اهداف ترد بر روی تابلاعی نقاشی سازنه اثر باید تمام این مکاتب نقاشی رو خوب بشنسته و در واقع خیلی خوب و عمیق مطالعه کرده باشه یعنی هم در مورد نقاش مورد نظر یعنی خالق تابلو و هم دورش دانش فوق العاده داشته باشه و هم برخوردار از چنان استعداد و تبحری باشه که هر گونه ناسازگاری میونه حرکات اثر خودش و اونایی رو که استاد بزرگ روی تابلو نشون از بین ببره باید اونها رو کشف کنه این کار شدنیه رنگ... رنگ ها جناب من رنگ ها حتماً باید دارای پیچیدگی ها و ظرافتی بسیار بیشتر از رنگ های کارتون باشن چه حکایتی آه. میشه گفت حکایت رؤیای یک هنرمند سفر شادمانه چشم قلم مو و دنیای نقاشی که در ته رنگ های خودش غرق شده متوجه هستید که بله گوش میکنم. آه بله بله متشکرم. خوب حالا من آه به قربان. من خانم ماشی ازش فهمیدیم. کار <تصفح> دیگه غیره ای نداری نه غیر متشکرم بفرمایید. خوب من فکر میکنم که من کافی حرف زدم بله همینطوره. امیدوارم که سرتون رو درد نیورده باشم من عادت دارم آخو البته حالا حالا من منتظرم که حرفای شما رو بشنوم خواهش میکنم آقای مان این کار زرافتی رو میطلبه به که مستلزم نوآوری در شیبه کارتونسازیه و کلی خرج بر میداره. چنین فیلمی به خاطر تراهی طاقت فرسایی که داره منطقا نمیتونه طولانی تر از چند دقیقه باشه تازه اونم بیشتر مردم رو به حد مرگ خسته و کسل میکنه و البته کلن نامید کننده خواهد بود بب... شما واقعا اینطور فکر میکنید؟ البته میدونم که ممکنه و احتمالا همینطورم هست که با این اظهار نظر موجب رنجش شما شده باشم ولی همون همونیست که عرض کردم جنابه من البته من فکر میخورم که اگه شما وقت بیشتری رو روی متعالیه تره نیازی نیست طرح شما بیشتر از چند صفحه نیست که هست خب نه از ما توجه به وقت کمی که هر بار مطالعه طرح شما برد، من اونو چندین بار مطالعه کردم اه... ببینید به من من فکر میکنم میتونیم کار رو با... با یه چیز خیلی ساده شروع کنیم ها یه پنجره که زنده میشه یه نشانه خونومادگی که جون میگیره یا یکی تو خدیث کچلو به هر حال اصلا خوب نیست آقا نمیشه خطر کرد و دنبال فیلم های فانتزی رفت بله ولی یه بری با آب اگه با من کاری ندارید مرخص میشم دارید میرید با اجازه شما به قهوتون جناب من متشکرم میل ندارم خدا نگهدار آقای البیناس در نگه که اصابورت داده فکر میکنه که من به این راحتی دست از این طرح ایده عالی اونو میدارم حالا چه نیازی هست که تو اینقدر خودتو ناراحت کنی عزیزم؟ ناراحتی من اینه که اون با همه داهاش در منو اصلا نفهم. از این جور آدم‌ها زیاد پیدا میشنن بله. البته که من ایده خودم رو دو دستی و مجانی تقدیمش می‌کردم خیلی عالی و خوب خب این طبیعیه. اینم روشی در تجارت. گور خورنده. پدر. تو داده بودی. چقولی قول داده بودی طیری ما حالا وقتی این حرفانی ولی پدرم قول داده خب بذار ببینم من چه قولی بهش دادم می‌بینی که پدر داره راجبه یه مسئله مهم صحبت می‌کنه آخه قوله پدر مهمه چرا مهمه, مهمه. چرا من نوارد تماشای مسابقه هاکی گفتم میبرمت خوبه تا میبرمت شیر ما ما فکر می‌کنم منم بتونم این قول پدر تو انجام بدم کی همین فردا یه مسابقه قرار فردا برگزار بشه خیلی خوبی دایپور خب خدا رو شکر ممنونم تول تشکر می‌کنم داشم میگفتی یاد بالاخره چی شد چی دیگه؟ من با همچین آدم نمیتونم کار بکنم این که معلومه عزیزم هر کسی لیاقت همکاری با تو رو نداره میدونی پول مردی که وقتی داشت میرفت چی گفت؟ نه چی گفت؟ نمیدونی؟ نه, نه فکر میکنی چی گفت؟ ام... لاباد ازت خواهش کرده که یه فرصتی دیگه بشت بدی تا دوباره یه نگاهی به ترهد بندرسه هم؟ دقیقا خب تو چی گفتی؟ خیلی خیل دستم و به طرفش اشتراز کردم و گفتم خدا حافظ آقا <تصفيق> دقیقا <تصفيق> حقشم هم همین بوده خب حالا میخوای چی کار کنی میچی هیچی مم. یعنی میخوای فراموشش کنی فراموشش کنم هرگز زندق. هرگز من تصادفم پی به وجود یک نابقه بردم ای که در کارهای غیر عادی ید طولایی ده باش قرار گذاشتی متاسفانه نه هنوز ندیدمش یعنی نمیدونم که کجاست با دنبارش بگردم من باید این آدم رو پیدا کنم فکر میکنم اون تنها کسیه که به درد من میخوره اون یه کاریکاتوریست ماهر و زبردسته که کارش حرف نده کی هست؟ مایکل رکس تو اطمان آدم مشوریه نه؟ تا حالا اسمشو نشنیدم خب از اون آدمایی یکی که زیاد به هایهوی علاقه نداره اما تمام آدم های خبره و متخصص میشنسنش م. میگن آدم یکی خیلی راحت میشه باش این خیلی خوبه چماختیش تو پاریس یک کاری کرده که توجه همه یه اهل فند رو به خودش جرب کرده تراحی یک افسانی ایرانی حسابی آدمی سطح بالای پاریس رو به شوق آونه حتما پول زیادی هم نصیب سرمایه گزارش کرده البته من ازوانش اطلاعی نه آره چجوری میخوایی پیداش کنی؟ پیداش میکنم. پیداش میکنم. اتفاقا چند سالم طول بکشم میگردم و پیداش میکنم یعنی به کس دیگه ای نمیخوای مراجعه بکنی نه هر چی آدمای شنونده طرح من بیشتر بشن خطر سوء استفاده و تقلبم بیشتر میشه این البته یک اصل حرفه ایه عزیزم، تو واقعا آدم باهوشی هستیم باید پیداش کنم باید پیداش کنم باید بگم باید پیداش کنم من باید پیداش کنم امیدوارم این چند روزی که پیش ما بودی بهت بد نگذشته باشه اصلا اصلا همه معصیب ای کاش اینجا پیش ما میموندی مطمئنا نمیذاشتم بهت بد بگذره. خیلی دلم میخوست ولی ولی چی دخترم؟ روزش پدرم خیلی تأکید کرد که مزاحم شما نشم پدرت آدم خیلی خوبیه اون همیشه به فکر دیگرونه اما باور کن که ما خیلی خوشحال میشدیم من میدونم که پدرت برا چی گفته که پیش ما نمونی اما باور کن که ما پس میزبانی تو برمی اومدی <تصفيق> شما زن منو تو این اون اونقدر منو شرمنده کردین که تا آخر عمرم فراموش نمیکنم خواهش میکنم از رفتن منو نموندرم حالا به هر دلیلی که هست ناراحت نشی من اگه پیش شما بمونم تمام هوش و شما متوجه زندگی من میشه این برست نصال شما اصلا خوب نیست دلیل عصیم که پدرم مخالف بودن من پیش شما بود همینه آه خیلی خوب بگذاریم اه. این زن چرا اینقدر دیر کرد؟ نگران نباشین الان تازگی ها پادردش شدید شده اینه که زیاد نمیتونه تون را بره من مرتب بهتون سر میزنم ای کاش جایی که قراره بری همین نزدیکی های خودمون بود بره خیلی خوب بود. حالا اونجا خیلی دوره؟ تقریبا اون طرف شهره آه. اما خانم سیلویا زن مطمئن و خوبیه برای همینم تو رو بهش معرفی کردیم ممنون امومه. واقعا ممنونم درسته که ما دیگه جاکو جونه درست حسابی نداریم اما هر وقت که به مشکلی برخورد کردی حتماً خبرمون کو. حتماً من توی این شهر بزرگ عجیب خیلی غریبم بودن شما تو یه گوشه ای تو این شهر برام قوت قلب بزرگیه خب تو وسایل تو جمع کردی؟ بله دیگه باید زنمود پیداش بشه برات یه تاکسی میگیرم به خانم سیلویام تلفن زدم و الان منتظرته قرار ساعت چهار رو باهاش گذاشتم خیلی لطف کردین اما مایزی یکش میتونستم محبتتون رو جبران کنم تو چقدر تعارف میکنی دختر؟ همون تابلویی که از من و زنم کشیدی برای همه چیز کافیه وقتی کنم بهتر شد یه تابلوی بزرگتر و بهتر ازتون می کشم اونجایی که اسم تو نوشتی کجا بود؟ آموزشکده نقاشی آه, آه چند سال باید بری؟ درست نمیدونم فکر کنم حداقل دو یا سه سالی باشه بعدش بر میگردی؟ بعدش اگه بتونم و امکانش بشه میخوام برم دانشکده دانشکده درس خوندن خیلی خوبه مخصوصم برای خانم. آه, آه. اومد باز کلید یادش رفته من میرم در و باز کنم نه نه اجازه بدین من برم خیلی خوش اومدی دخترم گفتی اسمت چی بود؟ مارگو خانم مارگو؟ چه اسم قشنگی؟ مثل خودت تو دختر زیبایی هستی امیدوارم آدم زیبایی هم باشی بله؟ یعنی اینکه آدم خوبی هم باشی بعضی از آدم ها برخلاف صورت زیبایی که دارن درونشون زیاد تعریف نداره بازيام صورت زیبایی ندارن اما درون زیبا و با صفایی دارن و تو حتما از اون آدمایی هستی که هم صورت زیبا دارن هم درون زیبا ممنونم خانوم ماکسیم بهت نگفته که اینجا منو چی صدا می چیزی نگفته خاله یا خاله سیلویا اینجوری احساس نزدیکی بیشتری بین من و بقیه به وجود میاد خب بعضی منو مادر صدا میزنن اما من خاله رو بیشتر ترجیح میدم متوجه شدی مارگو؟ بله خانم خاله <ت government> <تصفيق> ماکسیم آدم خیلی خوبیه سال هست که با هم دوست هستیم اما خوب اما از پیری سال تا سالم نمیتونیم همدیگر رو ببینیم اون خیلی سفارش تو رو به من کرد اون نه که از چیزی بترسه نه نه اما خب احتیاط چیز خوبیه اینجا شهر بزرگیه حتما هم خونوادت سفارشات لازم و بهت کردن هم خود مقسیم حرفهای لازم و بهت زده اه. چیزی هم که من میخوام بهت بگم همون حرف است به اضافه اینکه تو میتونی مثل مادرت روی من حساب کنی دخترم اه. هر مشکلی که داشتی هر جورش یعنی هر چیزی رو که فکر میکنی میتونه برای درد سر درست بکنه یا هر چیزی آه نگاه کن تو رو خدا همینجوری تو رو سر پا نگه داشتم و شروع کردم به فراشی نه خوبه گوش میکنه. نه نه نه نه اینجوری نمیشه. من یه اتاق خوب کنار اتاق خودم برای تو در نظر گرفتم و تو بذار و مرتب کن تا منم یه قهوه درست کنم بعد بیا تا حرفامونو با هم بزنیم باشه باشین اجازه بدیم من بیام توی درست کردن قهوه بهتون کمک کنم نه کاری رو که گفتم بکن. خودم درست میکنم وقت زیادیم به شام نمونده اینجا یه آشپز داریم که غذا رو سر ساعت هفت سرو میکنه. برو کاراتو بکنو بیا تا وقت شام با هم حرف میزنیم اونه هاش اونجا اونجا اتاق توه خیلی بزرگ نیست، بلی اتاق خوبیه برو برو تا منم برم قهوه رو درست کنم باشه <تصفيق> فقط اگه یه وقت وسیله شخصی چیزی تو اتاق بود بیاره بده به من البته من یه نگاهی کردم نظافت هم نظافت کرده ولی اگه یه وقتی شد... شاش اخ oh, uh -huh. ببخشیت <laughs> بچه هفته آینده ترم اول کلاس ما تموم میشه شما هر کدوم یه تابلو طراحی کنید و هفته آینده با خودتون بیارید خوب دقت کنید مجموعه آموزش هایی که توی این دوره یعنی دوره اول به شما داده شد باید در طراحی به کار برده بشه موضوع تر آزده هر موضوعی که بهش علاقه دارید طبیعت، حیوانات، انسان، موضوعات اجتماعی یا هر چیز دیگهی که به برسه تابلوی که ترایی میکنید میتونه جواز رفتن شما به تم بعد باشه یا اینکه دلیلی برای موندنتون برای گذروندن دوباره همین دوره باشه البته من مطمئنم که اکثر شما و امیدوارم که همتون جواز عبورو دریافت کنید فرمه بعد ما وارد مبحث رنگ ها خواهیم شده همتون خیلی خوب میدونه که نقاشی یعنی رنگ و تا زمانی که شما ها رنگو نشنسید و با اونها نتونید به شکل اصولی و علمی کار بکنید در واقع جید نقاشی نمیفهمید البته از شما به صورت تجربی کاری میکنید و بعضی امای کاری خوبی رو تصمیر میکنید اما اونا تماماً زوگی و تجربی انمان و جلسید حال هفته آینده این دوره تموم خواهد شد و ما تا آغاز دوره بعد دو هفته تحتیل خواهیی بود خدا خب؟ کافیه خفیه اگه کسی ساری نداره کلاس رو تحتیل میکنیم بله مارگو برای ترمه بعدم باید نام کنی ب... البته برای هر ترمی باید سمتنام کنی پول منظورا می نوچه آه بله خوب هر ترمی که نام میکنی باید شهری هم به بردازی البته یک کمی بیشتر از زوره قلعه بله بله خیلی خوب کلاس تحتیل میتونیم برید بیرون بیرون چیز خانوم بله با من هستی بله بله سلام سلام آقا بفرم میتونم چون لحظه مزاحمتون بشم برای چی؟ اگه اجازه بدید عرض میکنم بهتر نیست در حال قدم زدن صحبت کنیم خب باشه قدم بزنیم اسم من هوفر، مارتین هوفر اسم منم پیترزه، مارگو پیترز آه، از آشنایتون خوشبختم خانم. خونه پارتون رو نکنید، عرض میکنم من یک گالری نقاشی دارم که یکی دو نفر از اسادید مجرب در اون تدریس میکنن البته تدریس خصوصی خصوصی؟ بله، چون تقریباً هر کسی از پس شهری گالری بر نمیاد به خاطر همینم هست که من حالا، من چیکار میخواستم بهتون پیشنهاد کار بدم. کار؟ چه کاری؟ من به چند تو از این آمودشگاه هنری سر زدم ولی متاسفانه کسی که به درد کار ما بخوره پیدا نکرد آخه چه کاری؟ مدل. مدل؟ خب بله. ما قرارداد میبندیم پول خوبی به اون دست دستمزد بهتون میدیم خانم. خب میدونی من واقعا به یه درآمد احتیاج دارم. درآمدی که بتونه هزینه زندگیمو تأمین کنه. ولی حالا چرا وقتی سوراخ من آقای یوسف؟ میدونید در میون خانومها ها کسی چهره شما رو داره میفهمید که بله، البته البته این همه یه مسئله نیست کسانی که میخوان با ما همکاری کنن کم نیستن خانم ولی میشه شما اینه که خودتونم نقاشی میکنه خب من یعنی از کی؟ از همین فردا بفرمایید این درسته گالریه فردا همین ساعت بعد از تعطیل شدن کلاستون منتظرتون هستم خانم مرگا باشه حتما میام از آشنایتون خوشحال شدم خانم ببخشید شما اهل شهرستان هستید درسته بله من اهل شهرستان هستم آه، آه، خانوادهتون خانواده‌ام شهرستان هستن من اینجا 5 سال خوب خب برحال من فردا منتظرتم بله آقای برد من خانم خدا نگه <تصفيق> <تصفيق> باورت میشه خواهد سیلویا باورت میشه که من به این سرعت و راحتی کار پیدا کردم گفته خوبی هم میده جدیه که پدرم مجبور نیست که برام پول بفرسته. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. کاری خورده آروم می‌گیر بده. ناز من گفت خوشگرم که تا صبح میتونم بیدار ببینم. میتونم چی؟ اصلا تا صبح خوابم نمیبره. یعنی تو بری اونجا شاگرداشون از صورت نقاشی کنن. بله، گفت از من خوشگل‌تر تو هیچ شعر پیدا نکردی. من گفتم که خودم اهل هنر باشه. خب ببینم. مگه اینا نمیتونن که عکس خوشگل بزنن جلویشون از روش نقاشی بکنن؟ البته که میتونن. اما عکسی زاویه و انهنا نداره خالجون، جون مم. عکس که حس نداره عکس مم. که زنده نیست از همه مهمتر عکس بعد نداره اینایی که میگی حتما چیزای مهمیه اما من ازشون سر سردر فقط دخترم خوب حواست تو قرارداد خاله قرارداد قراره با هم قرارداد بنویسه به هر حال حواست خوب جم حواستم جمع جمه جمع. کجا معلوم؟ شاید صورت من به دردشون بخوره کنن. مم. یه وقتی دید بجلی روزنامه این چه وقتی دیدم چون بجله روزنامه ای چیزی هم چاپ شد. عمره مقد... مگه این همه بازیگر فیلم که تو فیلم بازی می کردن چجوری شناخته میشن؟ ها خب از همین جاها دیگه. حالا اینقدر نرو. جدی میگم، من که خودم میدونم خوشگلم. از خیلی از این دخترایی که تو فیلم بازی می کردن خوشگل تازه. من شنیدم خیلی از اینا فقط به خاطر هنرمند بودنشون بازیگر شدن. خب من که هم استعداد هنری خوب هم علاقه دارم. در واقع قبل درس اینکه یه دختر خوشگل باشم یه یه هنرمندم خانم خوشگل هنرمند یا خانم هنرمند خوشگل بلنشو برو ببین آشپز پیزو چیده یا نه بعد از شام با هم حرف بزنیم بلنشو دیگه معلوم نیست میخواد هنر پیشه بشه یا نقاش چشم خانه جون چشم همین الان خانم اگه با من کار دیگه نداری نه فریدا ما چکرم این ما خوابید؟ بله آقا بعد از شون برافزهن خوابش برد آخه خسته بود قبل از این که بری یه سری بهش بزن چشم خانم با اینجا داریم فریدا بله آقا قهوه هست بله هست بیارم لطفا برای هممون بیار فریدا چش آقا چیز دیگه لازم نداریم اینجا سیگاری هم خالی کن اید. چشم چی هستی تو امشب سرحال نیستی؟ ام. او چیزی نیست <تصفح> ال اون نقاش کاریکاتوریستو پیدا نکردی؟ نه متاسفانه تهیه کننده چی؟ پیدا کردی؟ نه هنوز نه یادم بیاد که قصد داشتی پول زیادی رو سرف این کار بکنی اما میبینم که هیجان چند روز پیشو نداری نکنه میخوای از خیرش بگذری راستش نمیدونم جنبه عملی کار خیلی ازیتم میکنه و هنوز از ایده خودم خوشم میاد فکر نمیکنی بهتر باشه که خودت سرمایه گذاری بکنی و اونا بسازی نه, نه نه نه نه نه اصلا معقول خب چرا مبارد. اگه قرار سودی در این کار باشه و اینطور که خودت میگی هست چرا کسی دیگه اون سودو ببره اصلا چه فرقی میکنه که کی سرمایه گذاری بکنه فرق میکنه پول فرق میکنه <متصف> بیل. شیر و شکرام آوردم که اگه میل داشتی متشکرم فریدا بذارش روی میز خیلی خب فریدا میتونی بری فقط فردا یه کمی زودتر بیا چون قبل از رفتن به مدرسه این ما باید حتما همون. کنه حموم اونم صبح امروز فرصت نشود هوا سرد خیلی تو با این حمومای بی‌موقع آخرش این بچه رو مریض می‌کنه نگران نباش آسیسام برو فریدا شب بخیر خانوم آقا شب بخیر آقا ای خب عل داشتی میگفتی که میکنه. بله فرق میکنم فرقش اینه که پول اونا برمیگرده برای پول من نه موضوع هم خب اگه در نهایت کسی پیدا شد چی؟ نمیدونم شاید شاید بلاخره خودم یک کارش بکنم البته بشروط برون که اون نقاش یعنی مایکر رکس رو پیدا کنم عجیبه که نمیتونی پیداش بکنه اه... یکی از دوستم چه وقت پیش توی مهمونی اونو دیده خب ولی بعد از اون هیچ ردی ازش نداره عط میزنه که تو آلمان نیست میگفت احتمالا تو پاریس باشه فکر میکنم حرف راجی به این قضیه دیگه کافیه میخواستم بگم که من تصویم دارم آخر همین هفته یه مهمونی بدم آه که ما نداری عزیزم باید متفاقم بدم نیست باید تنور و برای تغییر روحی هم خوبه پس خوب رو بخورین تا در موردش حرف بزنی. اول نگفتیم. ما قرارداد داریم خانم من الان یه ماهی که به عمر مدل شما کار می کردم تا نه هر وقت هم سر وقت رفتم یه ذره از کارم کم نزشته خب مگه غیر از این باید میکردید شما یه جوری میگه قرارداد داریم که انگار من خلاف اون عمل کردم. خب معلومه که خلاف کردید خانم چه دی یعنی میخواهید بکنید نه همچین چیزی جز قراره نبود چنین چیزی توی قرارداد ما هست خب اگه هست ها چرا نوشته نشده نشده آه. آه. این بند رو بخونید خب ملاحظه فرمودی شما سکرین شما یه دختر شهرستانی اصلا میتونیم به راحتی سلم کلا بذاریم سرکار خانوم حتما این انتظار رو ندارید که بنده اجازه بدم یه شهرستانی کلی پول ازم بگیر و بعدم بره و بریشم بشنده. شما از من خواستین که مدل بشم منم شدم آه شما که باز حرف خودتون رو میزنید خانم طبق این قرارداد شما مجبوری هستی نیستم نیستم هستید خانوم شما خیلی خوبم هستید یا طبق قراردادتون عمل میکنید یا میسپارم اتون دست پلیس. پلیس؟ پلیس. پیش خودتون فکر کردید که چه کار نون و آبداری پیدا کردید نا؟ اونم فقط با نشستن روزی چند ساعت روی چهارپایه، برای خودتون لباس های جور جورواجور بخرید، تفریحات گوناگون، از همه مهمتر و جالبتر اینکه به جای گرفتن پول از پدرتون در عوض چند هزار مارک هم براش بفرستید ها؟ پیش خودتون فکر کردید که اینا عجب آدمای دست و دل باز و احمقی هستند یا یانکه خوب پایتخت دیگه، لا با همین این خبرانی؟ را نیست ولی از روز اول به من گفتی. ببینید خانم من نمیخوام موجب ناراحتی شما بشم یا احیانا شما فکر کنید که من دارم به شما زور میگم ابدا فکر نکنید که اینجا قهدی خانم های مدل هست خیر ولی شما بابت این کار کلی پول از ما گرفتی اصلا از این بحث بگذاریم شما لطف کنید پولی رو که بهتون پرداخت کردیم برگردونید بعدش دیگه با هم کاری نداریم البته مزد این یک ماه شما محفوظ برگردی بله. این یکی از راه های پایان دادن به اختلافه خب البته راه های دیگه هم هست ولی این راحتترین ترین و مسالمت آمیزترین میسترین راه من... من که ده شما چی خانوم پیترز؟ میدونید شما میدونین بله؟, بله؟ میدونم که شما نمیتونید اون پول برگردونید مم... چرا که اونقدر هول و دست باچه بودید که بلافاصله فاصله خرجش گردید آمد... <متصفح> ببینید خانوم همونطور که گفتم شما در حال حاضر دو راه بیشتر ندارید یا پول ما رو پس بدید یا مراجعه میکنیم به قانون؟ نه خب چیزی پیترز آخه مگه شما قراره چی کار کنی؟ شاید روزهای اول سخت باشه ولی بعدش خیلی عادی و طبیعی میشه من از شما تعجب میکنم از شما که خودتون یک هنرمند هستید شما با این کارتون در واقع به هنرهای نقاشی و مجرسنم سازی خدمت میکنید شما در راه اشاعه و آموزش علمی فراگیر اونها شراکتی عملی و کارساز و مؤثر خواهید داشت ببینید زندان رفتن شما بله زندان رفتن شما نه برای ما پول میشه نه برای خودتون خب اینطوری درسته؟ در ابتدای کار اونم به خاطر مسائل مالی آدم اونم یه خانوم سر از اینجور جاها در بیاره؟ نه به من فکر کنم باید فکر کنم بله حتما فکر کنی جواب قطعی رو کی به من می‌ده؟ زود باشه. خدا فر. منتظرتم. <تصفيق> بهت گفتم که مواظب باشی اینجا آدمش با آدم های طرفا شما فرق دارن آدم های اینجا خیلی از کارا رو که خیلی هم بده به راحتی یا انجام میدن تازه نه تنها ناراحت نراحت نیستن بلکه براشون خیلی عادی و یک کسب به درآمد میدونن تازه خیر یاشونم قانونی مثل همین قرار داده تا... آدم بده بد آدمه بده چه اینجا چه شهر ما اونجا مردم سر همینگر میزنن اما دیر بدیم چون اونجا انقدر که اینجا به پول احتیاج احتیاج نیست اونجا شکمه از روی مختلف سیر میشه ولی اینجا فقط باید اسکناس بدی تا بتونی شکمه تو سیر کنی تو که اینها رو میدونی اینقدم خوب همشه رو میفهمی پس چرا اینجوری سادگی کردی؟ سادگی نکردم خیلی اماغت کردم پدرم میگه هیچی چیزی پول نمیتونه تمه آدم رو تحریک کنه تمه کردم آرزی پیده کردن راهی برای محشور شدم پیده کردن راهی برای بازیگر سینما شدم و خیلی از آرزوهای دیگه حالا میخوای چیکار کنی؟ <تصفيق> الان دو روزه که نه آموزش گده رفتی نه اونجا خودتو زندونی کردی دارم فکر میکنم بخونه میگم چطور موضوع رو به مکسیم بگین شاید بتونه کمکت بکنه نه هرگز نه مکسیم نه پدرت نکسه دیگه من خودمی مشکل حل میکنه. آخه چجوری؟ جوری؟ برای کس بکشن که خاله؟ میگم میگم چطوره فرار کنی؟ فرار؟ کجا؟ خب برو شهر خودت. اونا که اونجا رو نمیشناسن، فعلا که نیمدن دنباله. شهر خودم. درسته اونا اونجا رو نمیشناسن، اما من خوب میشناسم. بهخاطر همینم تازه نیومدن دنبالم. اونا که یه ذره حد زدن که من ممکنه فرار کنم، تازه ده بار دستگیرم کرده بودن. یعنی چیزی تو رو می‌شناسن ولی خونتو نمی‌شناسن. اونا از آمال آرزوی یه دختر شهرستانی که با همه سختی ها و مشکلات راهی پایتخت شده خبر دارن. اه. اونا خوب میدونن که تو این چما زندگی تو اینجا اونقدر ذهن و روحم از شهر خودم دورو به اینجا وابسته شده که اصلا به حتی زحمت مراقبت از منم نمیدن. اونا که این دختر در برابر هر روز موندن تو این شب اندیشه یک سال از گذشتهش فاصله میگیره شهری که سر و در هر بود آقونش به اندازه یکی از خیابونه اینجا چراغ نداره از نزدیکم برای این دختر قابل دیدن نیست چه برسه از این راه دور اونا خوب میدونن یه با از اینا. من که نمیفهمم تو چی بگی؟ ولی خب بالاخره باید کاری کرد نمیشه که همینجوری دست رو دست گذاشت و دختر مردم مستفار دست... آمد. میگم چطوره چطور موضوع رو با آقای میلر درمیون بذاریم میلر؟ میلر دیگه کیه؟ تازگی آمده یه ماهی میشه شایدم هم یه خورده بیشتر که پانزی آن شده چه کاری از دستش برمیاد هر کاری هم که نتونه بکنه حداقل میدونه راهنماییمون بکنه آخه میگه حقوقدانه تو کارهای حقوقی و اینجور جور چیزا چیکار میکنه مثلا اینکه چه کار حقوقی میکنه من درست نمیدونم شاید وکیل باشه شاید مثلا حسابداری چیزی خب میتونیم ازش بپرسیم اینکه ضرری نداره نه نداره ولی فکر نمیکنم فایده ای داشته باشه ام. وکیل باشه حساب دار باشه ازا خود قاضی اونا پولشونو میخواد باشه ولی تو بذار عقلن یه حرفی باش بزنیم خب نشدم نشد باشه قلیش حرف میزه الان که فکر میکنم خونه باشه یه ساعت دو ساعت دیگه پیداش میشه تا اومد میریم پیشش خوبه؟ ممنونم خالیجو تو همینجا بمون تا من برم یه سر و گوشی تو بدم از شما تعجب میکنم خانم مارگو مارگا بله من واقعا تعجب میکنم اصلا به نظر نمیاد من بی سواد یا فکر بگذریم فکر خانم سیلویا تمام ماجرا رو برای من شرح دادن البته درسته که من یک وکیل هستم ولی با این قبیل مسائل کمتر سر و کار دارم اما به هر حال من تمام تلاشمو میکنم امیدوارم که یعنی مطمئن باشید که یه کاریش میکنم میدونید من وقتی که در برابر یه همچین حرکات ناشایستی قرار می‌گیرم شدیداً دگرگم می‌شم. واقعاً اینکه من اصلاً فکر نمی‌کردم باشه این حرکت پستی رو, رو بشم وقتی آقای هوفر حس اسمش هوفره؟ مشم اون رو نه نه نه نه نه اصلا. اعتماد بدین خواهش میکنم بله. وقتی آقای هوفر با اون سر و با اون گالری سطح بالو چنین پیشنهاد به من کرد؟ اصلاً فکر نمی‌کردی که با همچین مشکلی برخورد کنی بله. پس این شرط پر از البته این آقای هوفر شما از کوچیک کوچیکای اوناست. روزی نیست که من با چند کلا برداری رنگارنگ روبرو نشم. یه نفر مالش باخته یه نفر حیثیتش اون یکی چی بگم، خانوم چی بگم. فقط شما شانس آوردین که مشکلتون در همین اندازه است. البته خانمی به وجاهت و زیبایی شما خیلی بیشتر از اینه واس خودش خودشو جمع بکنه وگرنه اگه از این مشکل خلاص بشم سعی می‌کنم دیگه نذارم کسی هم چه با من بکنه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ولی میدونید متاسفانه آدم مثل هوفر و خطرناکتر از اون همواره خیلی جلوتر از ما هستن منو شما قربانی اون هستیم آه. ما انتخاب نمی کنیم. یعنی اصلا توانشو نداریم بلکه فقط انتخاب میشیم شما شاید باور نکنید خانم خود من با اینکه چمخمه قانون حقوق شهروندی رو خیلی خیلی خوب میدونم و بلد هستم باز هر از گای تو همچین همین آدمای گرفتار میشم خود من شما بله یعنی اصلا یه وقت گمان نکنید که اگه کسی اهل همین جام بود دوچره یه اینجوری نمیشه ها اصلا قبله یعنی من اصلا نگران نباشید گفتم که من تمام تلاش خودم رو میکنم ام... فقط عذر میخوام ببخشید که این سوالو میکنم شما شما ازدواج کردین نه چطور میگه برای چی میپرسی خب میدونیم این, این مسئله علارقم ظاهر ساده ای که داره یکم حساسه خب اصلا بذارید مسئله رو یه جور دیگه بگم امکان داره هنگام حرکت و اقدام برای حل این ماجرا و مشکل من من مجبور بشم ادعا کنم که همسر شما هستم او خدای من این جور مواقع اصلا بگذاریم از نظر شما که ایرادی نداره این کار چی چه ارادی اینکه من ادعا کنم همسر من هستید البته این برای من جای بسی مباهات و افتخاری که همسری مثل شما داشته باشم ولی خب تو این یه مسئله چه اشکالی داریم؟ خوش بلم نگرام بودم یه وقت موافقت نکنید چرا موافقت نکنید؟ البته من خودم مجردم و... چه خوب اه... یعنی منظرم نید که پس شما مشکل ندید نگه ادعا که من همسرتون هستم من منظرم بکنید بله, بله بله من کاملا میفهمم حق با شماست حق با شماست خب خانم مارگوی عزیز لطف کنید سریع و دقیق آدرس گالری رو به من بدین تا من فرد صبح کار خودم رو شروع کنم. همه همیه الان کام از قدم میرم برای تو میریم خونت ازارم یعنی فکر میکنی موفق بشه؟ خودش که خیلی مطمئن حرف میزد با اعتماد به نفسی که اون از خودش نشون میده به نظرم میرسه کار زیاد سختی براش نباشه این به همین راحتی میره با اون حرف می‌زنه بعد همه چیز تموم میشه خب به اون با قانون و پیچ و خماش آشناست مثل من و تو نیست که آدم با عرضه به نظر میرسه من که ازش خیلی خوشم اومد خب نه اه... نه یعنی امیدوارم که موفق بشه حال آدم بدی به نظر نمیاد خوص صحبت برا رودار شیرک پوش به نظر میاد وضع زندگیشم بد نباشه به چرا آمده پانسیون بر اینکه جای ثابت زندگی نمیکنه؟ کنه وکیل شرکت های بزرگ تجاریه مدام در سفره یعنی به از اینجا میره؟ اونشو نمیدونم ولی ولی حالی مرد اگه جایی دلش بند بشه مطمئنم. خوشم بند میشه یعنی چی؟ خب بیتونه عزیزم مرد ها سلام خانم های محترم سلام تعظیم ارز میکنم اومد سلام آقای میلم خوش خبر باشید احتمالا شما خانم های محترم بتونید به یه مرد خسته یک فنجان قهوه تارف کنید به شرطی که اون مرد خسته با دست پرم برگردد پر پر احتمالا از این پرتر ممکن نیست این به فام اکونومی پیترز اینم خدمت شما. خسته با قرارداد، خرسین، یهام قرارداد تو گرفتی. درست. قراردادو گرفتی. خب بله میبینید که گرفتم. سیجی اخی... شبا... خی... فقط خیلی آروم و شمرده حالیشون کردم که اولا با کی طرفن دوم من وقتی فهمیدن که به این راحتی ها نمیشه با یه خانم محترم و زیبا چنین رفتاری کرد با خواهش و تمنا اصرار کردن که قرارداد و تقدیم خب منم وقتی دیدم که اون آدم از کرده خودش نادم و پشیمونه قول دادم که از پیگیری ماجره و گرفتن قرامت صرف نظر کنیم قرامت؟ یعنی قرامت می شد ازش البته خانم سیلیه البته قانون فقط برای اونایی که ازش اطلاعی ندارم پیچیده است نه برای خب حالا فکر میکنه که این مرد خسته مستحق نوشیدن یک فنجان قهوه داغ هست یا نه البته که هست آقای میره البته من همین الان براتون قهوه میارم ممنونم همین الان شما یه فرشته هستی امروز برای من روز بسیار زیبایی بود روزی که مثل هر روز بود اما با این تفاوت که به عنوان همسر آشنا به قانون یک خانوم مهربان و زیبا رو کار خودم رو انجام دادم من نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم شما امروز مثل خیلی بزرگی در حق من کردین آقای میله بسیار خوشحال میشم اگه به من افتخار بدین و آلفرد صدام کنین آه بله. <تصفيق> <تصفيق> اتو امشب خوشحال. به درسته گل. آل. حالت خوشبختا نه تو تقریبا همیشه خوشحالی. ولی امشب می‌دیدم. نیمیلم... نه نمی‌خوای به ما نگی. اتفاقا چرا؟ من امروز موقعیت خوشحال بودم که دلیلشو به منشی‌م گفتم. منشی؟ آوول صاحب پست واسه تو سیادت بخر بده. می‌بینی پول نمیتونم اسم هیچ رو به هر عنوان پیش نه شوال. من میفهمم تو میخواستی با یکی حرف بزنی که به جز منشید کس دیگه دم دستت نبوده یعنی تا رسیدن به الیزابت هم نمیتونستی سبت کنی؟ الیزابت خواهش میکنم بذار ببینم چی شده بگوال بگو من امروز... امروز از مایکل رکسی نامه داشتم باز <تص> بلاخره <costs> پیداش <تص> کردی اله پیداش کردی کوکو نام کو زود باش دیگه سبر من از این سر ایمکان برو. اجازه بده همی الان فریدا بده آقا اون کیف منو رو بیار کیف آقا رو بیار بده آقا بفر بایده خواه ممنونم کاری ندارید؟ نه ممنون فریدا برو دلی آقا خب بد بذار ببینم. البته نامه مفصله ولی اسمت مهمش اینه که براتون میخونم چیناب البینوس باید بگویم تلاش برای اقوای هالیوودی ها بیفاید است من یعنی ایشون پیشناد میکنم از اونجایی که شما آدم بسیار سروتمند و متمولی هستید خودتان آستین ها را بالا بزنید و برای این کار سرمایه گذاری کنید در این صورت زمانی که از پاریس به برلین برگشتم خودش خود. قبول خواهم کرد که در ازای دریافت دستموزی مناسب که نیمی از آن را پیش پرداخت خواهید کرد برای تا نقاشی کنم من یعنی اون اطمینان کامل دارم که از کار من به اضافه سرمایی شما یعنی من اثری پدید خواهد آمد که شاید بتوان امیدوار بود تبدیل به یکی از برچسته ترین آثار نقاشی مترده سینما در جهان بشود در ادامه گفته که این یک تخیل نیست هنرمند بسیار بزرگی چون شما آیه یعنی تو من اگر چنانچه به عواقب کار آگاه نبود هرگه سراغ نقاش کاریکاتریستی چون من نمیوم. خود میگه. وای شام در پایان نامه میگه آه اینجاست میتوانیم یک فیلم از آثار بروگل مثل تابلوی مصول ها یا هر چیزی دیگری که شما مایل باشید را زنده و متحرک کنیم بقیه هم و حریفت من و خیلی روی درست همون چیزی که میخواستی درست همون آه آه آه آه آه آه آه پس فیلم ما سب کنیم تاقای رکس از پاریس برگیم من که خیلی خوشحالم عزیزم باید آره. باید جهش میگیریم یکی از آثار برجسته نقاشی متحرک سینمای جهان سینمای جهان به خودشه خودشه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اینه که بهت پیشنهاد ازدواج دادی؟ نه اینکه خیلی سریع ازم تقاضی ازدواج کرده باشه نه ولی ولی چی... ام... تمام حرفاش رفتارش چون که چیز دیگه ای رو نمیشه گفت اه. اون دائم از زندگی مشترک حرف میزنه رسیدم به آرزوش همراه با زنی که دوستش داره البته ترین مورد که اون دوست داره شکی ندارم در واقع اون آشق من خب این درسته منم از رفتارش چیزی جز رو برداشت نمی تو این مدت انصافاً اون خیلی به تو رسیده ولی ولی روزای اول میگفت بیشتر از دو ماه قصد نداره که اینجا بمونه حالا چطور شده که خب دلیله موندن خیلی ساده است یعنی میخواد بگی به خاطر تو مونده اصلا تو این شک نکن یعنی نیست که چی گفتی اگه دل آدم جای بند بشه خود به خود بند میشه یادمه یادمه خب بسیلی بینی که بی ربتم نگفتم خب حالا این رابطه به این صورت تا کی قرار قراره ادامه فیدا کنه؟ بگیم اون منتظر فرصته یه موقعیت مناسب برای چی؟ خب برای درخواست عزویز از من دیگه خبستی که اون تو رو دوست داره و در واقع عاشقته خب تو چی؟ تو هم عاشق اون هستی؟ که قبلا بهت گفتم نه راجع به عشق و عاشقی هیچی نگفتی فقط گفتی ازش خیلی خوشت اومده خب منم مگه که از هر روز یا حداقل یه روز در میون میبرد گردش و این همه چیزای جور و جور واجور لباسای رنگ, و رنگ برام میخرید خیلی ازش خوشم میومد من که همین که برای تو این کارا رو میکنه ازش خوشم میاد چه محبت نکرده آه پس بران هر در این که از اون خیلی خوشمون بیاد برابریم ولی تو داری این راجب ازدواج و آینده حرف میزنی دختر راستش اول به احساسم به اون کمی شک داشتم احساس خوش اومدن؟ نه دارم به عشق خرف مزنم پس جناب جنتلمن حسابی خونه یه دل دختر ما رو خراب کرده آه, آه بگی خونه خراب دلم را آباد کرده مم. خالجون گمون میکنم هیچ مردی بتونه جای آلفردو تو دل من بگیره اون آدم خیلی خوبیه مرد بسیار مهربونیه اما من... خب تا چی؟ چه چی سمیه؟ اینکه اون علاوه بر اینکه میگه مادر همین شهره. چرا اومده پانزیون؟ خب چرا از من نمیپرسی؟ مگه تو میدونی؟ فکر میکنی این سال برای تو پیش میاد ولی برای من نه؟ خب اون تو این شهر بیدر و پیکر غریب تنها فرزند یه پدر مادر پیر که چند سال پیش هر دوشون فوت کردن. راستش پنون که با هم سر قبر اونام <متحن> به خاطر علاقه زیادی که به پدر مادرش باشه نمیتونه بدون اونا تو خونه پدرش بمونه خونه رو میفروشه برای مدت اینجا رو ترک میکنه حالا هم به خاطر کارش باید در سفر هم. خب این شد یه چیزی ام. حالا البته خیالم راحت تره میدونی دلم میخواد که اگه یه وقت در آینده دور یا نزدیک با پدر و مادرت روبرو شدم بهشون بگم که در حقت مادری کردم ازت مراقبت کردم میخوام بگم که تو جای ای که هیچ وقت نداشتمو برام پر کردی من مطمئنم مادر <متحن> خودم منم مدت کنه رمود که خب یه تو ازم حمایت کنه. من بر همین ممنونم. خب دیگه پاشو یه خورده به سراورد برس که دیگه به اومدن آلفرد چیزی نمونده. امروز کجا می‌خواید برید ها؟ درست اغلب اوقات بدون برنامه از خونه میریم بیرون امروز هم مثل اون روزا برادر مثل همیشه امیدوارم که بهتون خوش بگذره خیلی مواظب عشقت باش فکر نکن چیزی مثل عشق به همین راحتیه تو دل آدم به وجود میاد مطمئن باش من هم از عشق میخ اون نسبت به خودم و هم از عشق خودم به اون اطمینان کامل پس مطمئن باش که خیلی دوتر از اون که فکرشو بکنی بهت پیشنهاد ازدواج میده موضوع حتما باید اتفاق بیفته شو من برای همیشه به هیچ کس جز آلفرید فکر نمی کنم خب من کمترین چیزی که میتونم به مردی مثل اون هدیه کنم خب دیگه شو، برنشو شو که همین حال است که برسه شو. <تصفيق> باشه خاله سیبی باشه من رفتم <تصفيق> <تصفيق> امروز سبا خیلی خوبه عالی عزیزم عالیه خیلی وقت بود که اینجا نیومده بودیم سینما تاعترکا باره رستوران اینا همه جای خوبیه ولی فضای طبیعت چیز دیگه است <صحیح> تو این فضا آدم عشقو بیشتر از هر جای دیگه حس میکنه میدونی مارگو طبیعت به عشق آدم جلوه و شکوه میده طبیعت مثل دستی میمونه که پرده افتاده رو احساس و قلب آدمها رو کنار میزنه. چشبیه زیبایی البته در کنار همه اینا آدم اگه از رفاه مالی هم برخوردار باشه میتونه دو چندان لذت ببره دستی دشمن هرچی دوست داشته. موافقم عزیزم موافقم به خاطر همینم درم میخواد که در آینده هم من هم تو ام. در کارمون آدمای موفق من ماشید. که با تمام وجودم تلاش میکنم سیادثه آقا هر پیدا کردی ببینم میشه من قولی بدم انجامش ندم چی بود اسمش آلبینوس ام. اون مرد بسیار هنرمندیه. هم استاد نقاشی هم تهیه کننده سینما خدای من سینما ام. البته من بیشتر به همین خاطر میخوام زمینی رفتن تو پیش اونو فراهم کنم. اوان استاد گرونیه. تو فکر این چیزاش نباش عزیز دلم. تو... تو فقط باید سعی کنی که از اون چیز یاد بگیری. همین خیلی شاگرد داره؟ شاگرد؟ نه نه نه نه نه. احتمالاً تو تنها شاگرد اون خواهی بود. تنها شاگرد؟ البته شاید یکی دو نفرم باشند باشن که خب اونا اصلاً ربطی به کار تو ندارن. چهجوری جو سینما درس میده؟ اون که سینما درس نمیده. تو به عنوان شاگرد نقاشی میری پیش اون. وقتی تونستی خوب پیشمون برای خودت جایی باز بکنی خب خود به خود مسائل بعدی یکی پیسر هم دیگه حل میشن اینکه درست متوجه نمیشم ولی تا حتما میدینی که چی بر من خوده عزیزم البته سعادت تو تنها چیزیه که ذهن منو به خودش مشغول کرده این زیبایی خیره کننده تو نباید فقط متعلق به یه هنرمند نقاش باشه بزرگترین ستارگان زن هالیوود شاید یک کمی از زیبایی تو رو باشن. با این علاقه هم که تو به سینما داری این حق توه که بالا رفتن از این پله رو تجربه کنی نه من دختر خوشبختی. <تصفيق> نمیدونم اگر تو سر رو هم قرار نمی‌گرفتی. نمیگرفتی <تصفيق> ممنونم آنفرید <تصفيق> ممنونم منم که بایه ممنون باشم عزیزم که منو پذیر افتی. مطمئن باش که من و تو آیندهی زیبایی خواهیم دارم حتما عزیزم حتما همینطوره خب خب این نامه یا معرفی نامه رو یکی از دوستای هنرمند من که خودشو رو به مدیوم میدونه نوشته اسمش مایکل رکسه یکی از برجسته ترین کاریکاتوریستای کشور شایددم اروپا البته اینو بدون که مطمئنا اگه همچین نامه ای نباشه آلبینوس حتی حاضر نیست جواب تلفن منو تو رو بده این نامه همه چیزو رو میکنه دیگه برقیش با خودت عزیزم دوستم آقای رکسو میگم برای فردا بعدازظهر تلفنی از آلبینوس برای تو وقت گرفته آدر همین فردا خیلی خوب دیگه داره شب میشه بهتره راه بیافتیم یه رستوران همین نزدیکی هست که خرجنگای معشری داره بریم راست دیگه لازم نیست از فردا به اون آموزش بریم باشه تو بگی عزیزم واقعا از دیدن شما خیلی خوشحالم وقتی آقای رکس به من تلفن کردن و گفتن که شما تشیف میارید باور کنید تا همین الان داشتم دقیق شماری میکردم واقعیت اینه که آقای ریگس از هنرمندان بسیار برجسته و تراز اول کشور هستن که منم ارادت خالصانه و عجیبی خدمت ایشون دارم شما لطف دارین استاد من امیدوارم که مزاهم نشده باشم مزاهم ابدا ابدا خانوم خانومی مثل شما با این آ تو اگه از طرف یک لبخند سفارش نشده بودید جایگاه خاصی نزد من داشتی. واقعا متشکرم دقیقا همون چیزی که در مورد شما شنیده بودم در امید چش به چشم خودم می بینم. این از نظر بلند نظریه شماست خانوم. اینه که من تو تو خوابم نمیدیدم که خانومی به این زیبایی این روزی تو دفتر من روبروی من نشسته باشه و با افتخار هم صحبتی باشون داشته باشم نظر نه شماست بیچاره نبود که آقای رج تأکید داشتند که نقاشی شما استعداد بازیگری در سینوان هم دارید امکانش هست استاد امکانش؟ البته که هست اگه برای شما نباشه پس برای کی باشه نمیدونی چقدر خوشحالم استاد البته زمان میبره ها همراهی شما همدیلی شما همکاری شما خلاصه تلاش و پشکار شما از اولین شرایط رسیدن به اون چیزی که آرزول شد داری من استاد حتما مطمئن باشین که طالب ها نرجوی به پشکار و پیگیریه من برخورد نکردی ظاهرا که به هر حال شما اینجا رو این دفتر رو، این کشکیلات رو متعلق به خودتون بتونید در واقع دوستان آقای رچ دوستان عزیز منم خواهند بود ممنونم استاد ببینم شما چه رابطی یعنی چه نسبتی با آقای رکس داشتید؟ نسبت؟ خب راستش را دلات... اصلا مهم نیست، مهم نیست همینجوری جوری چیزی پرسیدم مهم اینه که شما الان اینجا هستید و امیدوارم که هم اینجا بمونید من که آرزومه استاد بداشت که من این سؤالو میپرسم در همین جوری ها برای اشنای بیشتر شما؟ استه کردید؟ نه اوست من مجردم. اوه درست مثل من. یعنی شما با این؟ ببخشید. با این سال. بله خب پیش نیومده دیگه. م... حالا پیشنهاد میکنم که بریم من قسمت های دیگه دفتره نشونتون بدم. باشه بریم خواهش میکنم بفرمایید. چش چش بفرمایید. بفرمایید. ازیزم سلام میدونم که دیری کردم میبخشه کجا بودی؟ خب معلومه مثل اینکه که خیلی خوب قرقه کار آموزش آموزش شدیم با استادشیم روی تابلو کار میکردیم کارا خوب پیش میره عالی اون به من خیلی محبت میکنه اون خلی که مدوم و شرمنده میکنه دیروزه دیروز چی؟ خواستمت نگم گفتم شاید خوشت نیاد از چی؟ کی روزی هدیه داد؟ جدی؟ <laughs> یه نفر به تو هدیه داده، من چرا باید بدم بیاد؟ <jeux> می‌دونی آخه اون اون رفتار به خصوصی داره. سعی میکنه نشون بده که بهت علاقه‌منده. آره آره همینطوره. <laughs> خب این چه اشکالی داره؟ کاش <laughs> بهش بگم که نام زد داره. هم... به نظرت اون استاد نقاشی خوبیه؟ و از حداقل بر آدمی در سطح من اون گفته که زمینی ورودت به سینما رو فراهم کنه نه آره امروز گفت که زودی یکی از بهترین مؤسسات سینمایی که مسئله بازیگری رو دائر میکنه و فقط ده نفر دختر پسر رو انتخاب می‌کنه فکرشو بکن آه. و قول در که من یکی از اون ده نفر باشم <تصفح> جدا آره <تصفح> خب ب... حالا اگه تو بهش بگی که نام زد داری مطمئن باش که هیچ کدوم از این کارا به این صورتی که میگی انجام نمیشه. میفهمی چی میگم آره میفهم مهم پاکی و سلامتی توه عزیزم که من بهش افتخار میکنم فقط یادت باشه که تو باید از این آدم نهایت استفاده رو بکنی مارگو اون که حالا رفتار غیر اخلاقی نداشته نه نه اصلا خیلی خوبه خوبه تو همه رفتارهای محبتامیز اونو بذار به حساب رفتار رفتار یه پدر با دخترش آه آره اینجوری خیلی بهتره <تصفح> فقط مواضح باش حرکتی نکنی که تو زاقش بزنی نگران نباش عزیزم حواظم جمعه خب سفارش هم بدیم نره اینکه هم کنیم ببین من میخواستم یکم با هم حرف بزنی بعد از شما میتونیم همین الان <تصفح> خب باشه باشه عزیزم بگو در مورد خودمونه مشکلی پیش اومده نه ببین آفرد من درسته که دلم میخواد در عالم هنر پیشرفت کنم اما اما قبل از اون آرزو می‌نی که به کسی که عاشقشم یه زندگی مشترک تشکیل بدم، خونه و همون چیزی که منم آرزوشو دارم عزیزم. زندگی با کسی که عاشقشم. کی؟ <تصفيق> بی‌زودی. حداقل تو در کارت به یه مراحلی برسی که نتونی به رهاش کنی. میدونی که زندگی زناشویی میتونه سط بزرگی برای جلو رفتن یه هنرمند سینما به خصوص هنرمند زن باشه. تا این تو این فکر میکنی؟ دقیقاً، اما مطمئن باش اینو من بهت قول میدم یک سال دیگه ببینم تو که تحمل یک سال دیگه داری ها؟ اگه نداری همین هفته آینده میریم کلیسا البته که دارم البته وقتی به آینده فکر میکنم یه موفق موفق سینما همسر یک مرد خوشبخت مادر نمونه یه فرزندان دلبند آه او... الفرید خب حالا <vors> اجازه میدید سفرش غذا بدی مارگو خیلی گرستمه تو اگه همینجوری پیش برید اطمئن باش. من هم قول میدم به زودی یکی از نقاش های برزسته کشور خواهی شد ممنونم استاد من تا حالا چند بار به تو تذکر دادم که از کلمه استاد در مورد من پرهیز کنی ولی تو انگار نمیشنوی من چی میگن آخه وقتی استاد سلام میکنی احساس میکنم دارم پیر میشم. من زیاد میخوام آس اص... من آخه نمیدونم چی صداتون کنم حال صدام کن عزیزم البینوس این که خیلی سخت نیست چطور من تو رو مارگو صدا میزنم؟ پس از این به بعد نه شما و نه استاد ال و تو باشه مارگو باشه ال <تصفيق> یه مجدم براد دارم مارگو فکر میکنم که از سنیدنش خیلی خوشحال بسی چی هست ال؟ البته آدم اگه یه بازیگر بزرگ سینما باشه نقاش بزرگ بودنش بزرگتر به نظر میاد چند روز دیگه کلاس های بازیگری که بهت گفته بودم شروع میشه آهه من چه خبر و تو یکی از ده شاگردی بود که در این کلاس زیر نظر یکی از کارگردان های بزرگ سینما شرکت کرد ممنونم ممنونم؟ یه نکته هست که چه نکته ای؟ خ هزینهین این کلاسست میدونید عزیزم هزینه این کلاس خیلی بالاست در واقع کسی که تو این کلاس شرکت بکنه تقریبا مرش کار در سینما تضمین شده خواهد بود. بفرمایید. ببخشید قربان. آقای مایکرو رکس تماس گرفتن. خب؟ گفتن که بهتون بگم که نمیتونن سر قرارشون حاضر بشن. یه کار مهمی پیش اومده بعد یه سفر برن آمریکا. دیگه مهم نیست. بسیار خوب خانوم در درسم اگه آقای رکس دوباره تماس گرفتن بگید که من از اون طرف کاملا منصرف شدم. گذاشتمش کنار. بله قربان با اجازه من یه داشتم میگفتم که هزینه این کراسا بالاست میخواستم بدونم که تو قادر به پرداخت شهری این کراسا هستی چقدر هست حدود ده هزار مارف ده هزار ما آه. ولی من میزدم حدث میزدم می پس بذارم مجتم رو کاملتر بکنم تو؟ لازمیست نگران هزینه این کلاسه باشی من خودم ترتیبش میدم او خدای من الله غیر قابل تصوره تو اونگر پیش من عزیز هستی که بتونم این کار کوچولو رو به عنوان یک هدیه ترتیمت بکنم تو واقعا منو شرمندی میکنی نمیدونم چجوری سپاس کنم درمی خود راهی بود میتونستم جبران کنم البته تو که زیاده من منتق... به ب... خواهش میکنم بگو هر کاری هر کاری که بتونم میکنم میدونیم مارگو من من از همون روز اول که تو رو دیدم ببینم من اگه از تو از تو تغذای می نگی بخوام که با من ازدواج بکنی ازدواج با تو فکر میکنی من مناسب تو نیستم؟ درسته که سن من یعنی درسته که من از تو خیلی بزرگترم اما واقعیت اینه که من عاشق تو هستم مارگو خب چی میگی؟ آما نمیدونم آخه فکرشو بکن فکرشو بکن من و تو در کنار همچه کارا که نمیتونیم بکنیم من اونقدر ثروت دارم که بتونم در سال یک یا دو فیلم سینمایی بسازم. طبیعیه که تو اولین کاندید بازی در فیلمای من خواهی بود <تصفيق> البته من همین الان از تو جواب نمیخوام میدونم که برات غیر منتظره بود اما با برخورده محبت که تو این مدت با من داشتی فکرم میتونم این اجازه رو به خودم بدن که این موضوع رو مطرح بکنم رسش من چجوری بگم من... میدونی عزیزم به روشن کنم در عالم هنر اساس و دلیل ارتباط هنرمند با هم دیگه چیزی جز هنر نیست نا سن و سال میتونه بلاک باشه اختلاف طبقاتی که هر دوی اونها وقتی پای هنر در میون باشه اصلا به حساب نمیان و دیده نمیشن خب بله میدونم که برات غیر منتظره بود گفتم که همین الانم لزومی نداره جواب بدی من زیاده اجله هم ندارم هم که و در کنارم باشی اه. من فکر میکنم که کار برای نوز کافیه ما امشب شما با هم بخوریم آقا اگه اجازه بدیم خیلی فکر کنی؟ بله باشه گفتم که من عجله ندارم بباست عجل. اگه اجازه بدیم من برم باشه مارگوورو عزیزم من منتظر جوابت میمونم فقط لطفا با هیچ کس داریم مورد حرفی نزد ها باشه خدافز خدا خدافز اگه از روز اول گفته بودی که نامزد داری هیچ وقت اینجوری نمیشه نمیدونم شاید ولی نمیدونم چجوری این به الفرِد بگم چجوری نداره اتفاقی که افتاده رو براش بگو نگرانم منم البته نگرانیم داره نمیتونی بذاری همینجوری بمونه که نمیتونم ولی ولی من میترسم از چی میترسمه که نامزد و به آلبینوس بگم دیگه اون آینده که بهش امید بستم و هم کاری که اون غریره برام بکنه به خطر بیفته از طرف دیگه به آلفرد هم می میترسم با رفتنم بشه آلبینوس مخالفت کنه. کوبینه اینایی که میگی امکانش هست ولی آخرش چیه؟ من فعلا گمون میکنم به آلفرد چیزی نگم بهتر باشه. چون که ذات خود آلفرد هم از دست بدم از دست دادن اون برام غیر قابل تحمله. خب تو که اینجوری فکر میکنی بهتر نیست از فکر بازیگر شدن بیای بیرون و به به زندگی؟ اینم برام دردناکه. من شب و روزم با فکر آینده می‌گذرونم. آلبینوس بر من مثل پولی میمونه که اگه خراب بشه. امکان داره تو کهخر طرف بمونم و حه از دست رفته ها رو بخورم عزیزم تو به ناچاری انتخاب کنی اینجوری که نمیشه تو میشه یعنی چی؟ گفرد چیزی نمیگم. به آبیینوس نمیگم که نامزد دارم. نمیفهمم با Alfredرت نمیگی که اون بهت پیشنهاد ازدواج داده م... به اربیینوز نمیگی که نامزد داری. هیچ میفهمی چی کار داری میکنی. تو اصلا جواب رو چی میخوای بدی میدونی اگه به جواب منفی ندی اون روز به روز امیدوارتر میشه و جواب منفی ندادن تو رو خود به خود مثبت به حساب میاره میگن که فعلا قصد ازدواج ندارم میگم میخوام راجع به خوب فکر کنم اینجور که تو میگی حتی این جوابم میتونه امکانات اونو از تو دور بکنه پس من چیکار کنم گفتم که تو مجبوری انتخاب کنی یا آلبینوس و به قول خودت آینده رو یا آلفرد و زندگی زناشویی رو آه، اصلا نمیتونم درست فکر کنم قادر به اینش انتخابی نیستم اینجوری فقط خودت رو عذیت میکنی عزیزم فعلا به آلفرد چیزی نمیگم به آلبینوس هم یه مدت میگم دارم فکر میکنم خب طبیعه که بعد یه جوری هم بهش بگم که قطع امید نکنه تا من بالاخره خودمان به یه جایی برسونم هر جایی که برسی بازی بعد و آینده ای وجود خیلن روه دیگه ای نمیرسه فرشترم امشه هم دیر کرده نمیدونم همون بهتر که تو با این حالتونو رو نبینی پرو بگیر بخواب تا یه مغزت استراحت بکنه تلفنی با معلم کلاس بازیریت صحبت کردم اون از پیشرفت و استعداد تو خیلی تعریف میکرد میگفت آینده درخشانی در انتظارته راستی؟ آره عزیزم من که خیلی امیدوار شدم دیگه چیزی به پایان کلاستون نمونده اینجور کلاس ها به خاطر فشردگی به اندازه یک دانشگاه چند ساله به هنرجو چیزی یاد میدن به خاطر همینم است که کسایی که این دوره رو میگذرونن در عالم هرفهی خیلی موفق تر هستن همه اینو از رسف و محبت نه نه همش تلاش و استعداد خودته تصمیم دارم خودم یه فیلم نامی جمع جور برای شور کارت بنویسم البته نه یه فیلم بلنده یه فیلم کوتا جمع جور فقط برای خودمون یه فیلم برای تجربه دار کردن تو من واقعا نمی چی بگم تو هنوزم داری فکر میکنی؟ فکر؟ رج... اا خب من هنوز تردید داری؟ نه نه تردید ندارم فقط مم... فقط آمادگیشو ندارم مم... میگه موضوع ساده‌ای می نیست. میدونم میدونم میدونم. گلم میخواد یه وقت که تحت فشار گذاشتم بهت تا... یا ندارم مجبورت میکنم. آ... نه نه نه من چه چه فکنی نمیکنم. پولی رو که دادم برای خونوادت فرستادم. آره فرستادم. دیروز نامه پدرم رسید خیلی خوشحال شده بود. راپرسی بده ببینم پول از کجا آورده؟ خب براش بنویس که کار میکنی ها ماله همین پیش خودم. اینجا مؤسسه معتبریه از این به بعدم به عنوان کارمند اینجا ماهیانه برادی حقوقی در نظر می‌گیرم تو به اون اندازه درک از نقاشی رسیدی که بتونی با هنرجوهای جوهای کار سر و کله بزنی اله تو خیلی مهربونی مارگو در برابر عشقی که به تو دارم کاهی در برابر کوه تو لیاقت بیشتر از اینها رو داری عزیزم. واقعا نمیدونم چی بگم فقط بگو که کنار من میمونی من در کنار تو هستم اه آمین برای من کافی عزیزم تصمیم گرفتم برات یه آپارتمان بگیرم ها؟ آپارتمان بر من؟ برای هر دومون تو اصلا نمیپرسی که خانم منشی چرا دو روزه نمیاد؟ رسی چرا؟ برای اینکه با بودن تو من دیگه به منشی احتیاجی ندارم اله کی برات قهوه میاره؟ اگه سرکار خانم افتخار بدم برای هر دومون خودم قهوه میارم من الان برمیگردم تا بقیه حرفامونو بزنیم باور کن لحظاتی که در کنار تو هستم اصلا متوجه گذره زمان نمیشم در واقع این لحظات جز عمرم به حساب نمیان شما بشینید من همین الان با دو فنجون قهوه برمیگردم <تصفح> <تصفح> اتفاقی افتده حتما کار فوری براش پیش اومده و رفته کلان ده روزه ده روزه که رفته و ازش خبری نیست تو حالا خودتو انقدر ناراحت نکن بگیر بشی چجوری, چجوری خودمو ناراحت نکنم خودتو بزر جای من من خودم به اندازه کافی ناراحت هستم دیگه لازم نیست که خودمو بذارم جای تو. خب میگم ببینم تازگیا دواتو نشده یعنی چی عرفی دلخوری دوایی بگو مگویی میگم نکنه به رابطه تو و اون ام... خود اون بود که تشویقم میکرد من... من من چجوری بگم در مورد این تشویق کردن آلفرد کمی یعنی میدونی آخه چجوری میشه که یه مرد برای خودش رقیب عشقی دارد اون با تمام وجود خواهان پیشرفت من بود حتی بیشتر از خود من خوب شاید ولی دنباله یه همون احساس من به من میگه آه. که میگه... بگو خواهش میکنم بگو تو چه فکر میکنی به اون رفته و دوگم بر نمیگرده نه نه این غیر ممکن بذار ببینم چیه آه. یه نامست برای تو باشه ببینم خودایی من این دستخطه آلفریده خب بازش کن از ببینم این پولشیه حد که چی باشه تو هم با این حدثات خب بخون دیگه برگای عزیز اگر نگر نه نه این غیر ممکنه چی نوشه بده ببینم آه، آه، گفتم که اون رفته و دیگه هم بر نمیگرده خوبه که اقلن کرایه پانسیونش یادش درمیده مارگو چرا باید غمگینی اتفاقی افتاده یک هفته است از که ازت خبری ندارم نه شماره تلفنی نه آدرسی چقدر خودم رو لعنت کردم که چرا اقلا یه شماره تلفن ازت ندارم اگه بدونی تو این یک هفته چی به من گذشت هزار جور فکر و خیال کجا بودی عزیزم با چرا حرف نمیزنی چیز مهمی نیزن رفته بودی شهرستان نه میجا تو پای تخت بودم خبری از شهرستان رسیده برای خونوادت اتفاقی افتاده؟ نه اتفاقی برای هیچ کس نیفتاده خوب باش چه گفتم که چیزی نیست فقط یکم حالم خوب نیست مم. تو هنوزم میخوای که پارتمان بگیری؟ من من نمیدونم که توی این یک هفته چه اتفاقی افتاده اما هرچی باشه من ازش استقبال میکنم معلومه که هنوزم میخوام. <تصفيق> منم میخوام. بش، حتی یک لحظه هم نباید از دستت. تو ام اینجا بمون تا من یک تماس بگیم الان برمیگردم. ما ما ما من, من باورم نمیشه. آره. بله غیر ممکنه غیر ممکنه خیانت حالینوس نزد... منم اول باورم نشد اصلا باورم نشد ولی وقتی منشیش البته منشی سابقش چون ال اونو اخراج کرده و اون دختره کارشو میکنه وقتی منشی مدارک و دلایل خودشو ارائه کرد من تصادفاً منشی رو دیدم الیزابت الان نزدیکی یک ساله بعدم گفت چی ای... بعدم چی گفت ال حتماً یه آپارتمان مبل و گران قیمتم براش اجاره کرده با یه ماست این دیگه غیر قابل تحمله، غیر قابل تحمله. دیگه،, دیگه یه لحظه من چی خونه بمونم؟ حتی یه لحظه. اه، چیکار می‌خوای بکنی؟ علی‌اکبر. میدم. من ایر ماست خونه میرم. آقای آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آقای. آره، گوشو. من ندادم که برم. اوه خدای من من چقدر بلندم. الیزوب، جایی نداری؟ آه. پس بس خونه من. اونجا خونه تو هم هست عزیزم. آره، آره میریم خونه دا آه ره. آه ره میریم من. فریدا، باشه خانم این ما رو زود جمع کن. ما از اینجا میریم. بجنب فریدا. آره باشه الیزوب، آروم باش. گلدون بزار اون گوشه چشم خانم میدونی لینا بله خانم ایش میدونی تا همین چند وقت پیش داشتن شغل تو از بزرگترین آرزوهای من بود نمیدونستم خانم ولی خب حتما لیاقتشو داشتید که صاحب این خونه و زندگی شدید تو که میدونی این خونه و زندگی مال من نیست یعنی فعلا نیست با علاقه ای که آقا به شما دارن چه؟ تو منتظر کسی هستی؟ نه خانوم ش... شاید آقا باشن می... میرم ببینم کیه برکلا ای <تصفح> کجا داری میری؟ شما کی هستی؟ به زیدی که من کی هستم هی! شما کی هستی؟ به چه جزه ای خونه ای من شدی ببخشید خانوم من نتونستم جلوشو میبیرم مارگو تو هستی؟ ناره خودم هم. شما؟ مم. بی خود نیست که تونستی علوی رسو از سیر خودت کنی نیه. گفتم شما چی هستی؟ لینا پولیسو خبر کن،, کن من همین الان از اینجا میرم خیلی زود ولی فقط چند کلمه گوش بده بعد میرم زود باشه قا حرفتو بزن و برو و گنب. خیلی دلت میخواد بدونی من کی هستم نه؟ آره من برادر همسر المینوس هستم چی گفتی؟ فکر میکنی دختر خانم از همپاشوندن یه زندگی شیرین و موفق کار هنرمندانه یه نه؟ زندگی شیرین؟ زندگی کی؟ اطمان میخوایی بگی که خبر نداشتی نه او به من گفت بچه نداره متعهل نیست یا خیلی سادهی و یا خیلی هیلگر و حق باز تو به این فکر نکردی که آدمی به سن و سال اون چجوری تو الان مجرد مونده؟ خب من من نمیم ببین خانم به بهت اختار میکنم اصلا چرا اختار اگه میگی خبر نداشتی اگه چشم مال ثروت البینوس نیست اگه یه جو صداقت تو وجودت هست به خاطر زنی که شوهرشو عاشقانه دوست داره و دختری که جونش برای پدرش در میره تو از زندگی اونا بکش بیرون من دیگه رفه زحمت میکنم خانوم و شما رو با وشدانه تنها میذارم خانم چی شد؟ فرد. همیشه بود در همه حال منتظر مرگ من آنم از این نارد نیست که چرا من با تو آشنه شدم اون نگران از دست دادن ثروت منه نه خود من منتظر از اول باید به من میگفتی میگفتم که چی بشه میگفتم و بعد خود به خود تو رو از رسیدم به خواستات محروم میکردم میگفتم و جلوی شکوفایی است یک نابغه رو میگرفتم من مطمئن بودم که اگه به تو میگفتم امکان داشت که تو کلا از ادامه کار هنری مصرف میشدی. واقعیت اینه که تو یه دختر داری و یه همسر خانواده داری اونا به هت امید دارن. حداقل دخترت دلش نمیخواد تو را از دست بده همش تقصیر اونه میدونی هنوز مطمئن نشده که این خبر راسته یا دروغ دست بچه رو گرفته و از خونه رفته ددد تازه بد از ینکه رفته برادرش اومده اینجا مزهم تو شده <تصفح> حال چه تو باشی چه نباشی چه با من ازدواج بکنی چه نکنی من اونو میدم ما از هم جدا میشیم خیلی وقت بود که میخواستیم این کارو بکنیم مدام با هم دعوا داشتیم ولی خوب. حالا که تو حالا که تو اومدی میدونی از زمانی که پای تو به زندگی من باز شد من آدم دیگه شدم زندگی هنری هنریم رو شده تفکراتم شروع به پرواز کردم دامنه ای تخیراتم چنان گسترده شده که با اندک تمرکزی عالی ترین رو, رو روی کاغذ میارم من همه اینا رو با اومدن اون زن تو زندگیم از دست داده بودم هر کاریم که میکردم کردم و تجربی و از روی عادت بود درسته که من و تو با هم فاصله سنی زیادی داریم اما اما هنر همه فاصله ها رو از بین میبره بارگو هر فاصله رو فاصله مکانی، فاصله زمانی و سنی و هر نوع فاصله دیگه چون کار هنر نزدیک کردن فاصله هاست <تص> فکرشو بکن من و تو وقتی با هم تشکیل یک زوج هنریو بدیم میدونی چی میشه اون وقت تنها چیزی که من و تو در درون همدیگه میبینیم و به چشممون میاد همون هنری است که داریم نه من غیافه تو رو میبینم و نه تو غیافه منو خیلو خیلو منو دیگه برنشو برنش رو برو یه آبی به دست و صورتت بزنم برو هموم یه دوشی بگیر و سعی کن به حرفایی که زدم خوب فکر کنیم مطمئن باش اگه این وسط تقصیر متوجه کسی باشه اون آدم من هستم و مطمئن باش به زودی من اون زن رو طلاق بیدم اون با هم ازدواج میکنیم مارگو اون وقتی که تمام زندگی من خودم وقتم همه و همه در خدمت بازیگر آینده سینما خواهد بود من به تو قول میدم که در آید چندان دور تبدیل به یکی از ستارگان زیبا و موفق هالیوود خواهی شد مامان, ماما. مامان. <تصفح> یاسیسام یعنی یعنی دیگه بابا پیش ما نمیاد من خیلی دارم براش تنگ شده تو چرا نمیری بخوابی اصلا من جلالم بابا خیلی تنگ شده اگه اون نمیاد ما بریم پیش اون ما دیگه این بعد خونه دایي پول میمونیم ما میخوام برم خونه خودم یعنی مسیسام میریم دخترم از کی کی تو که مدرسه منم عوضی طرف دایي پول اوه ایر مسیسام ما دیگه سالت دیگه باید خیلی خوب بفهمی ما دیگه نمیتونیم برگردیم به اون آخه چرا من که نفهمیدم تو یه گفتی بریم خونه ایدائی ای پال من از وقت تاله بابا رو ندیدم از از اون چرا نمیاد بیشه ما تو خونه خودمون همه چیز خوب بود خیلی خوب بود مامان بریم خونه خودمون نه دیگه دوختم نه خونه دیگه مال من منی یعنی چی؟ اون خونه من مال نه عزیزم نه خوشش میکنم بیرمان قدستیتم نکن نه مامان باید بری خیلی خوب نکن بوسه بوسه بوسه دیگه چیزی خوب عزیزم، فیلمنامه رو خوندی؟ عارفه خونده خوشت اومد نصفش اونقدر هیجان زدم که چیزی نمیتونم بگم اصلا باورم نمیشه یه نفر برای فیلمی که من قراره بازی کنم یه فیلمنامه اختصاصی بنویسه <تصفيق> این که چیز مهمی نیست پس اگه بشنوی که من با یک کارگردان و فیلم بردارم برای شروع کار قرار داد بستم چی میگم آلوینو ساسیزا چرا مراحبطری منو قافلگیرتر هیجان زده تر میکنن <تصفيق> میترسم نه تحمل کنم و پس بیفتم ما بزودی... یعنی همین هفته آینده کار فیلم رو شروع میکنیم آه. قراره که کارگردان فیلم پس فرد بیاد با تو کار بکنه که حسابی توی فیلم کولاک cool بکنی خیلی عالیه خب این از کارایی مربوط به فیلم تو اه... تو هنوز نظرتو راجع به خونه من نگفتی از اونجا خوش تو من... خیلی خونه قشنگیه ولی ثانیس من همینجور بمونم البته تا وقتی که با هم ازدواج نگردی؟ تو ابدا لازم نیست نگران چیزی باشی اا. تو توی اون خونم با حفظ استقلال کامل میتونی زندگی بکنی همه یه مال تو من هم همون اتاقی که دارم برام کافیه البته یه وقت فکر نکنی که من برای کرایه اینجا اصرار میکنم که تو بیای اونجا وقتی اومدی اونجا میتونی کرایه اینجا رو برای خودت پسنداز کنی من... دلم نمیخواست که به این زودی زنم از رابطه منو تو خبر بشه که فهمید یه ساعتم توی اون خونه نمونده نشون داد که لیاغت اون خونه رو نداره حالا کسی اونجا میره که لیاغتش رو داشته باشه مم. کسی اونجا میره که تو در واقع جای خالی اون رو با من پر کنی و خیال میلاس خونه خالی بدون همسر و دخترت برات سج بره اصطرافیم نمیتونی دست از حواث خودت که رسیدن به موجود زیبایی مثل منه برداری داری مرگو مرگو باشه باشه میریم خونه ای تو پس قبل از نقل مکان یه حساب برام باز کن کره یه اینجا رو ماه به نه ماه به ماه نه یه جا ماله یه سال واریز کن چشم عزیز اضافه بر چیزی که گفتی چند هزار تاییم خودمش اضافه میکنم ممنونم تو همیشه منو شرمنده میکنی همه این زندگی مال تو عزیزم البته که مال من خواهد شد عرضه خیره خوشالا مثلا باورم نمیشه. بعضی وقتها فکر می کنم دارم خواب می بینم. تو بیداره بیداری بی جاری. اش اینم. اون رفیق های معروف، بازیگرای تئاتر، سینما، های معروف. خدویه من <مت> عل، <đ wh man>? تو <تصفيق> امشب سنگ تموم گذاشتی. برای تو که اینا هیچی نیست عزیزم. هیچی. خب با مهمونا که آشنا شدی. حالا تا قبل از دیدن فیلم میخوام <متش> خوام بی نفر دیگه معرفی <متش> کنم. یه دفعه اونو به تو معرفی کنم. کی هست؟ یکی از بزرگترین نقاشان و کاریکاتوریست های کشور که شورت جهانی هم داره تازه است مسافرت نیویورک برگشته اگه بدونی با چه زحمتی پیدوش کردم نگفته کیه مایک رکس خدای من کوش کجاست هم که نامه نگی که نمونه که برای اومدن پیش من یه نامه ازش برام آوردی چون که آخرش نفهمیدم تا هم که نگفتی اون نامه چجوری از مایکل برای تو گرفته شده بوده اوناش آی آقای رکس آه سلام سلام سلام خب عزیزم معرفی میکنم آقای مایکل رکس خوشبخت نه از تو خیلی خوشانم خانوم و امیدوارم که فیلم خیلی خوبی بازی کرده باشین یا در واقع بازی خوبی این فیلم کرده باشین امت که بازی خوبی کرده حالا ببینید چه شده مارگو یهوی چه شد چرا اونجوری نگاش من من منو ببخشیم خواهیش میکنم خواهیش مارگو ببخشید آقای رکس من الانبر میگردم بله بله بله خواهیش میکنم خواهیش میکنم اعتمالا گرمشون شده مارگو عزیزم تو بیشتر از اینه باید به خودت مسلط باشی. من تو همون آموزشگاهی که تو درس نقاشی میخوندی تدریس میکردم اون تو یه کلاس دیگه. وقتی در غیاب شاگردا اساتید از, از اونو و کاراشون حرف میزدند، همیشه یک نفر به طور تو حرفاشون وجود داشت. و اون آدم تو بودی. این بود که این بود که هفره رو سر راهام قرار دادی. بعدم با من راه دیگه ای وجود نداشت. البته تو اگه با من به عنوان یه نقاش روبرو میشدی. امکان داشت به من توجهی نشون بدی اما من من دستم خالی بود ولی مطمئن نبودم که تو هم موافقت بکنی اگه موافقت نمی کردی همه چیز خراب می ولی تو همارا تنها من نه نه نه اصلا اینطور نیست من دور دور مراقبت بودم از طریق لینا الفرد مایکل اگه بدونی چه حضا بکشیدم میدونم. ببینم حالا واقعا می با این آلوینوس ازدواج کنی؟ هرگز عزیزم <foremost exhale> مخصوصا حالا تو رو پیدا کردم یعنی میخوایی ولش کنی و بهش جوابه رد بدهی <تصفح> من یعنی منو تو خب این بازی رو رسیدن من به حالی وود ادامه میدیم <تصفح> میدونستم دختر باهوشی هستی تو همسرش رو دیدی؟ <مهنس> نه ولی شنیدم زن خوبیه همین شب تو مهمونی تقریبا همه عفوا در مورد تو و اون بود البته زیبایی تو و خوبی های اون و خسلت های ال همسرش هم زیباست من آلو با مشون دیدم یکی بتر نیست بریم میریم من با عنوان شاگردین حقا دارم که هیجان درونی خودم و با صحبت با استاد بزرگی چون مایکل رکس تخت بیه خیلی خب بریم دیگه بریم مایکل دیگه منو تنها نست خب خواهش میکنم من هیچ تو رو تنها نذاشتم ترتیبی میدم یعنی جوری برخورد می‌کنم که مرتب به اینجا رفت آمد خیلی خوبه خیلی خوب عزیزم برگو باگو میبینم که با رکس خلوت کردین؟ نه ال با همه تاریخی که تو از اذه رکس کرده بودی خیلی دلم می‌خواست که چند کلمه با ایشون حرف بزنم. البته با افتخار به اندازه‌ی نامزد هنرمند بزرگی مثل آلبینوس اینجوری منو مورد لطف خودشون قرار دادن. خب بهتر نیست بقیه حرفا رو پیش بقیه مهمونا بزنی؟ آ حرفت رو که شما بفرمایید. اصلا هرطور که میلش شماست. خواهش می‌کنم قانون بفرمایید از طرف. بفرمایید. دکتر آروم آروم بابا بابا باش دکتر اجازه بده ول بله بیا دکتر چی شده چیزی نیست بیا پول چی شده دکتر متاسفم پول علش خیلی بدتر شده. زاتوریه کار خودش رو کرده. یعنی چی دکتر؟ خواهش میکنم. برو جول که میتونی آلبینوسو بیار این بچه رو ببینه. یعنی یعنی هیچ امیدی نیست؟ در واقع بعد از این که دکتر جرالدونادی آه نه ادامه نده دکتر ادامه نده. در واقع اون بچه دیگه چیزی نمیفهمه. ولای بیار شاید متاسفم. هیچ کار دیگه از دست هیچکس ساخته نیست. چرا کوشمارم ندادین؟ آه. شما تو باید آلبینوسو میآوردین اون رو ببینه. و الیزابت از اون خونه به اینجا اشتباه بود. بله شماها نباید به این راحتی هتیمی خالی می در واقع اجازه دادین که اون بدون مزاحم هر کاری که دلش میخواد انجام بده. اینجور وقتا اگه کنایه خطا کار رو بررسی خیلی بهتره. شما ها باید وان مود از چیزی خبر ندارین. باید به مخفی کاری اون کمک می درسته، درسته. ولی شماها کاری کردین که شرم حیای اون از بین بره و. و هر گلی که از این حرفا گذشته برو برو شاید بتونی بیاریش باشه باشه البته مطمئنم که اگه بدونه این مادر چه وضعیه حتما میاد دو تا امپولم نوشتم که حتما بهش توضیح کنیم نمیذاره در بکشه زود باش از الیزابت خداحافظی کن باشه یادت نره چی کنم ممنون دکتر حتما میرم سراغش همین الان میرم عدن نگهدار آروم باشی خوهر من آروم باشی همون دیروز رفتم گفت میام نگفتی ایرما در چه بزنیه؟ چرا چرا دیروز ازش خواستم که بیاد گفت که میاد گفتی داره میمیره آره خوهر من گفتم خیلی نالا اچی خدایی من با چه دیوی زندگی میکردم ایرما ایرما من باز میکرم کجاست ایرما کجاست ایرما این یزوبه؟ من کجاست؟ اونجا، اونجا diyor آره، اونجا، اونجا دفترم خیلی بهتر شده. هر از مرگ دخترش میگذره روحیش هم بهتر میشه. دو ماه گذشته. گذشته زمان هر غمی رو سبوک می‌کنه. همان نکته که مون نباید ازش کافِل بشیم اینه که مرگ دخترش تا اندازه‌ای از شدت کدورت با زنش کم کرده که البته برای ما زنگ خطره. توی این مدت چند بار به دیدن همسرش رفتی؟ میگی چیکار کنیم؟ مرگ دخترش ضربه سختی به اون زد اما حالش خوبه، دره قبلش میشه. مسافرت. آره. باید وینوس از اینجا دور کنی. یه مسافرت نسبتاً طولانی. فکر بدی نیست اما غمو نمی‌کنم شده داشته بم. انگار که اون دربارا برای تو دائم سر تعظیم فرود میاره. آره درست. میدونم چی بش. خیلی خوبه واس فقط یادت نره که پول نقد به اندازه کافی بردارین. در ضمن دست چه که علم یادت نره. ما هنوز پول زیادی لازم داریم. ام. تمام پولی که تا حالا جمع کردیم اصلاً قابل توجه نیست. مسافرت فرصت خوبی برای خرج کردن پول و کشیدن چک. نگران نباش عزیزم. <تصفيق> چنان بدوشمش که تبدیل به یک گاوه لاغر مزنی بشه. فقط باید خیلی رو جمع کنیم. تو دیگه برو چیزی به اومدنش نموده کمتر منو تو رو با هم ببینه بهتره. خیلی خوب باشه. من رفتم. مراسی. توی این مدتی که مانی سیم، تو چیکار میکنی؟ <تصفيق> <تصفيق> من مثل امشب از دور مراقبت هستم عزیزم. منم با رایت فاصله توی مسافرت با شما همراه خواهم بود خود دیگه خدافرز خدافرز دلم می‌خوام تو جاده انقدر رانندگی خوب باشه. حالا کجا شو دیدی؟ به گردنه رو سر پیچه برسیم، وقت رانندگی رو نشونت می‌دم. خاله، اونو باشه ببین تو فقط سعی کن هر دومون سالم به مقصد برسی، بقیهش مهم نیست. ولی ای کاش ما رکس هم خودمون می‌آوردیم. رکس؟ دیگه برای چی؟ مسافرت سه نفره. حالا بدم میسوم. خب فرصت خوبی بود تا راجع به آینده با هم حرف بزنیم. برنامه هایی که میتونیم با هم داشته باشیم؟ مخصوصاً آموزش نقاشی به تو. می‌دونی اگه هرچی که اون بلده به تو منتقل بشه و تو هم یاد بگیری، خودت تبدیل به یک مایکرو رس دیگه میشه با خودم فکر می‌کنم که اگه تو یه وقت تو سینما موفق نشد موفق نشم؟ گفتم البته اگه اگه نشدی استعداد نقاشیت یه وقت بهش بیتوجهی نشه بازیگری که نقاش ماهریم باشه بهتر از بازیگری که اصلا نقاشی برد نیست تو با من موافق نیستی؟ البته که موافقم در مورد رکس این که کار نداره به اولین شعری که رسیدیم بهش تلفن بیزنیم یکی من معطاعت میکنیم تا به اون برسام میدونه که اون از هر نوع دعوتی استقبال میکنه. دقیقا همینطوره در اون یک ماشین خیلی رفته بالا؟ ماشین رو ماشین خیلی شد تو که اومدی مایکی که حسابی گیت شده بودم نمیدونستم چی کار کنم خوشحالم خیلی خوشحالم که اینجای خدای من چقدر خودت که با دکتر حرف زدی خود دکتر که یکی دو نفر متخصصم از جای دیگه ما معاینش کردن ولی نتیجه همونی بود که بود خودش میدونه دیروز که با رو باز کردن متوجه شد البته قبل از عمل جراحی چیزایی بهش گفته بودن اما نه به که کور شده یه لحظه نمیذاره من از کنانش تکون بخورم الان که میبینی اینجا هستم یه قرش شدم که کمی بخوابه تو این دوست روزه سبکرلی کسی پیدا نشده فقط پلیس که تصادف تصدفه قرابنده کرد دیگه که خبرنگاری کسی نه نه خیلی خوبه فقط نباید بذاریم کسی بفهمه که تصادف تصدف کرده خب ببینم تو الان تو بیمارستان با عنوان دخترش بدون که من چیزی بگم همه از اول من با عنوان دخترش حساب کردم منم چیزی نگفتم کار خوبی کردی اینجوری خیلی بهتره تو کی باید اینجا و اینجوری بمونی من دارم دیوونه میشم برو عجله نکن عزیزم عجله نکن یکی دو روز دیگه صبر کن سعی میکنیم هر چی سریع‌تر اون از این بیمارستان ببریم کجا میگم البته اول باید خوب فکر کنیم تو فقط تلاش کن که هیچ تغییری تو شرایط فعلی به وجود نیاد من مطمئنم همسرش متوجه بشه علاوه بر همین مسئولیت سر اون وقتی که اون ما به راتی درش میارن به خصوص حالا که اون نابینا شده و بدون کمک دیگران نمیتونه کاری بکنه تو باید خیلی ازش مراقبت کنی میفهمی؟ باید احساس کنه بدون تو زندگی براش سخت و غیر قابل تحمله آخه تو چی من هرگز نمیتونم پرستار اون باشم حالا هم از روی ماشرطی اینو چیکار کنم آخه خواهش میکنم, میکنم. خرابش نکن ما به زودی اون از اینجا میبریم خیلی خوب خیلی خوب باشه هرچی تو بگی ببینم تو خودت ایده خوبه ها مشکلی بعد پیش نمیاد دیگه خوبم فقط خسته‌ام چه شانس بزرگی آوردیم. مگه ما اون تیره تلفن برخورد نمیکرد الان معلوم نبود چه صحنه‌بیشی داشتیم. باید اون از کشور ببریم بیرون. کجا؟ احتمالا سوئیس، زوریخ. تو کوهستانای اونجا جاهای خوبی برای اجاره وجود داره. ام. تو اونو به بهانه بردن پیش دکتر خوب از کشور خارج میکنی البته من همچین حتماً رو اونجا براش پیدا میکنم تا کی؟ تا, کی؟ تا وقتی که لازم باشه عزیزم. مگه چی؟ کی بفهمه، چی بفهمن؟ تازه کدوم جرم خلافو؟ تنها فرقی که با گذشته داره اینی که ال کور شده و به کمک تو به زندگیش ادامه میده فقط سعی نکن احساس کنه چیزی داره بهش تحمیل میشه. باید با توجه به کوریش احساس تسلط بیشتری بهش دست بده. ام. تو باید رفتاری بکنی که اون به این نتیجه برسه که تمام کارایی که در حق تو کرده درست بوده و تو هم آدم شناس و سپاس خب دستی. باشه فقط ببین هر کاری میکنی زودتر نمیخوای بهش سر بزنی؟ نه نه نه, نه. بهتر که من نیام چون ممکنه از من بخواد برای کمک کردن به تو و اون پیشتون بمونم یا چه می میدونم بیشتر بهتون سر بزنم اون وقتی ممکنه رو سنگینی نقش تو در پرستاری از اون تاثیر بزاره بذار فکر کنه که تو این شرایط فقط این تو بودی که رهاش نکردی خب اصلا حتی میتونی بهش بگی البته بعداً که به چند نفر زنگ زدی و گفتی که تو چه وضعیتی هستین اما هیچکس توجهی نکرده مم؟ خیلی خب دیگه من میرم چون برو بیش ال <تصفح> مایکن تو خود زود برگرد الی زود به الله خدای خونویه کمی بالاتر. آها. بله خانم داشتم میگفتم. میبخشین آقای دکتر حرف زدن من حواستونو پرت نمی کنه. نه نه بگین بگین من مایه خودم او میکنم. بله داشتم میگفتم که یه کل به در کوهستان جره کردیم. برای اینکه یه مدتی رو اونجا سپری کنیم. میخواستم ببینم برای راحتی چشم ایشون هوای کوهستان ضرری نداره. نگرانی شما خانم قابل تقدیره <تصفيق> ولی هوای کوهستان برای همه خوبه چه آدم های و چه آدمایی که هر نوع بیماری داشته باشه میبینید پروفسور چه فرشتهی نگهبان سلامتی بله بله همینطوره. خب کار من تموم شده خب پروفسور نتیجه؟ حتما بهتون گفتن که اعصاب بیناییتون در نقطه تقاطع مرز آسیب دیده شاید این له شدگی درمان بشه شایدم به ضعف و تحلیل کامل حساب منجر بشه البته نمیخوام بی جهت شما رو امیدوار کنم احتمال هر دو پنجاه درصده اما در حال حاضر مهمترین چیز برای شما استراحت مطلقه که فکر میکنم خودتون مقدمات کارو رو فراهم کردیم البته شما به آساشگاه میتونیم برین چون آه. اونجا همه وسایل رفاهی و آسایش و پرستاری وجود داره اطرافیان یعنی شما هم میتونن به کار و زندگیشون برسن نه آقای دکتر ما به همون کل به یک کوهستانی میریم خوب. بله آقای دکتر اینجوری خیلی بهتره. ما در کنار همدیگه آسایش بیشتری خیلیم داشت آه. اگه مارگو نبود من هرگز به این سرعت نمیتونستم شرایط زد راور نابینای کنار بیان شما از هر کسی بهتر میدونید که یک آدمی که همین یه زندگی شرف ادامه نده خواهش میکنم خب پروفسور، اجازه میدیم البته فقط داروها رو مرتب و به طور دقیقه و سر وقت مصرف کنم قطمان بله رو بگیم بلنش رو بگیم خواهش می خواهش میکنم آره قرصی که بشتدم هفت ساعتی میخوا بوندش چی شد با کسی که حرف دادی کی قراره بیاد الان ساعت دوه دیگه باید پیداش بشه البته اگه آدم خوش که هست سلام آقا سلام خانم بفرمایید سلام خانم سلام روزتون بخیر بچکرم من در خدمتم قربان طبق قراری که داشتیم بفهمید بشینید نه ما چکرم میل دارم همینجا سر پارفمونه بزنیم تا من کارمو شروع کنم آ بله بله البته ببینید خانم ما به این دلیل این حوغه بالا رو به شما میدیم که قراره در خدمت مردی باشید که در اثر یه شک روانی وحشتناک کور شده ام. من پزشک اونم اما با توجه به وضعیت ذهنیش اون اصلا نباید بفهمه که تو این خونه یه دکترم با او دختر برادرش زندگی میکنه بنابراین اگه کوچکترین اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به حضور من بکنید مثلا مثلا طوری که اون بشنوه منو صدا می کنید در برابر قانون شما مسئول تمام عواقع به وقت افتادن در پیشرفت درمانشگاهیت بود و این جرم تا اونجایی که من میدونم تو کشور شما سوئیس مجازات خیلی شدیدی داره به علاوه بهتون توصیه می کنم که به بیمار من نزدیک نشین یا اصلا سعی نکنید بهش نزدیک بشین و یه جوری سر صحبتو با اون باز کنید چون اون دچار حملات شدید جنوب میشه. شاید بد نباشه باشه که اینم بدونید که طالب یه پیرزن که اونم اتفاقا خیلی شبیه شما بود ولی البته جذابیت شما رو نداشت حمله کرده و با لگت زدن به سر رو سخت مجروح کرده. من راستش اصلا خوشم نمیاد که این اتفاق دوباره و این بار برای شما بیفته. مهمتر از همه این که اگه تو روستا را بیافتید به قیبت و شایعه بافی و مردمو کنجکاوک کنید ممکنه مریضم به خاطر شرایطش همه چیز خونه رو خورد و خاکشیر کنه و کارش رو با سر و صورت شما شروع کنه میفهمید چی میگم خانم؟ ببخشید آقا اگه اجازه بدید من مرخص میشم فکر نمیکنم بتونم از پس این کار بر بیام چون, چون واقعا زندگیمو دوست دارم من،, من،, من اصلا دلم نمیخواد که با مریض شما رو آقا <سدس> البته لزوی نداره که شما بترسید اصلا چون شما مریض منو نمیبینید پرستار مستقیم اون دختر برادرشه و شما فقط آشپزی و نظافت ساختمون به جز اتاق مریض منو به عهده دارید البته با رعایت شرایطی که گفتم ش... شما شما مطمئن هستید که من اصلا مریض شما رو کاملاً البته البته که اونو نمیبینید فقط خواهش میکنم که به من و برادر زادش کمک کنید میدونید ما از آلمان نیومدیم اینجا که دست خالی برگردیم فقط امیدوارم که شما تو مراجعه این مریض محترم بتونید به ما کمک کنید البته من سعی یعنی تمام سعی خودمو خواهم کرده. خوبه این خیلی خوبه خونمده اون پول زیادی تو خرج کرده میبینید که یه آشپز خصوصی به همراه مریض اونم معلوم نیست برای چه اما خب فقط امیدوارم که شما کاملا آمادگیشو پیدا کرده باشید البته قربان البته خیلی خوب پس شروع کنید الان ساعت حدود دو بعد از ولی ما هنوز چیزی به عنوان نهار نخوردیم همه چیز توی شامل هست ببینم برای شروع چی برامون آماده می‌کنی همین الان آقای دکتر تو خوابم همچین سرنوشت وحشتناکی رو تصور نمیکرد بعضی وقتا از اون فکر کردم مغزم میخواد مفجر بشه از حرفای پروفسورم چیزی جز ناامیدی بیرون نمیزد همه چیز سیاه و تاریک ظلمات مثل خیر. اگه کور مادر زاد بودم اینقدر خرد نمیشدم من در طول عمرم خیلی کم کابوس دیده بودم اونگاه کم که اصلا یادم نمیاد دیدم یا ندیدم اما تو این شماه اخیر مرتب کابوس میبینم کابوس پشت کابوس کابوس وحشتناک ای, ای کاش کوری تو خوابم واقعیت داشته من این همه کابوس نمیدیدم از همه وحشتناکتر کابوسیه که توش مدام چهره ایرما پیداست که با چشمای مظلوم و معصوم ملتم به من نگاه میکنه دستشو رو به طرف من دراز میکنه اما من هرچی به طرفش میرم بهش نکنیم حال تو هرچی بیشتر به این کابوس فکر کنی بیشتر به سراغت میه کن در موردشون فکر نکنی خب خوابای ما باستاب به اون چیزی که ما در بیداری در موردشون خیلی فکر میکنیم چه خوبش چه بدش. مارگو نمیدونم اگه تو نبودی چه بلایی سر من میومد. کی قرار بود که از من مراقبت بکنه؟ این چه حرفیه عزیزم من بر همیشه در کنارت خواهم بود و این تنها چیزیه که منو به زندگی امیدوار میکنه اگه تو نبودی حتماً من تا حالا دیوونه شده بود فکرشو بکن یه دیوونه کور یا یه کور دیوونه اه این چه حرفیه؟ دیوونه کدومه؟ بعضی وقتا یه رو میشنوم که طبیعتاً تو این خونه نیست بعضی وقتها احساس میکنم که یه نفر تو این خونه وجود داره و رفته آمد میکنه خب یه نفر دیگه بجز من و تو تو این خونه هست نه نه نه مستخدمو نمیگم توزمون که قرار طبق دوم نیاد گفتم که تو نباید زیاد فکر کنی درست ولی خب وقتی یه حس آدم از کار میافته حواست دیگهش تقویت میشن من فکر میکنم یعنی احساس میکنم که شنواییم خیلی بیشتر و حساستر شده مارگو خب این که خیلی خوبه آره خوبه ولی به شرطی که واقعا صدایی که آدم میشنوه موجب آزارش نباشه حالا مگه تو چه صدایی میشنوی؟ احساس میکنم یه آدم دیگه البته بجز مستخدما ما تو این ساختمون هست بعضی وقتا احساس میکنم که دو نفر با هم در حال حرف زدن هستن دو نفر؟ ببینم تو نشده با کسی که اصلا این چه سالی؟ خب معلومه جز ماد و نفر کسی دیگه اینجا گفتم نمید. که اینا مربوط به اون فکرایی زیاده فکر و تخیل زیاد همیشه کار دست آدم میده بهتر نیست راجع به ترهایی که بشه در آینده رو اونا کار کرد کار کنی ام. اگه ترهی برای نقاشی باشه خب من میکشمش اگه طرحی برای نوشتن باشه من مینویسمش اگه کاری برای انجام دادم باشه خب من انجامش میدم دیگه چی میخوای گفتم که تو فرشته نگهبان و نجات منی عزیزم عزیزم بگیر چی چی دست چیکی مگه پولای دست چیکی قبلی تمام شد نه یکم مونده ولی زیاد نیست فردا میخوام یه سر برم شه باشه پس یه قلم لطفا بگیر چکرم بیا. بگیر از ایسا تو حسابتون قد پول هست که بتونیم تو ده سالم که بخوای میتونیم هم اینجا بمونیم البته اگه از اینجا خوشت اومد نه ترجیم میدم برگردم خونه تو باید فعالیت خودتو از سر بگیری یعنی میتونم البته که میتونی. چه نیدی؟ چی مود؟ ها. صدا صدا نشنیدی؟ نه صدا؟ کدوم صدا؟ من چیزی نشیده خدای ما یعنی من باز خیال کردم اه خب میتونه گربه ای چیز باشه من الان میرم ببینم چی بود هره آره آره، برو ببین معلوم هستشی ها... کار ها... داری میکنی من نکنه میخوای همه چیزو خراب کنی چرا؟ مگه چی شده؟ یه مواظب نیستی صدا... صدای چی بود ببینم تو مستی؟ نه فقط چند جاره را... ده تا پایین دسترم مراقب نیستی تو نباید اینجا مشروب بخوری بارگو بارگو پیشت اونجا برو بزید برو پیشت پیشت قربه ای کسی اومدم عزیزم اومدم برو سلام چارلی سلام پول سلام نیزابت سلام چارلی خوبی ممنونم تو خوبی چی شده چارلی برای چی گفتی ما بیایم بانک اونم با این نجله اتفاقی افتاده ببینم همسر و دخترت خوبن آره پول آره،, آره آره نگران نباش یعنی آه... یعنی منظورم اینه که چی موضوع مربوط به البینوس البنوس. خوش خوب اتفاقی افتاد ما خیلی وقتی که ازش خبر نداریم البته اشایعات شنیدیم ولی نتونستیم بگی چی شده چارلی چند وقتی که چکای عجیب و غریبی به بانک میاد و از حساب برداشت میشه یعنی چی چارلی؟ تو خدا پل اینو از من نشنیده بگیرین چون اگه بفهمه که من چنین چیزی به شما گفتم، موقعیت من شدیدم به خطر میفته درسته که من رئیس بانک هستم. راحت باشه چارلی. این دیگه توضیح نداره. محاله میشه بگی چه خبره؟ باشه باشه بهتون میگم. ال حساب خیلی خوبی داشت. مبلغ بسیار قابل توجه. خب اما هم همه اونها به شکل بی رویه ای داره خالی میشه. ها؟ فکر میکنم یه چکه دیگه بیاد چیزی تو حساب ال نمونه. خب لابد حسابش خالی کنه. این چه مسئله؟ آره خب. این حق اونه. حقشه. ولی ببین این چه ها مربوط به اونه؟ خوب نگاه کن. فقط امضا با خط آلبینوس. بقیه مفاتح چک با دو تا دستخطه. یعنی دو نفر به جز خود آلبینوس. آه. چون من دیگه دستخط الو خیلی خوب میشناسم نگاه کن. آه. این سه تا چک رو ببین. آره آره. این یکی مال خیلی وقت پیشه که همه چیز اونو خود ال نوشته. آه. اما این دوتا رو ببین. این یکی دستخط، اینم یه دستخط دست دیگه. بله بله. هر دو مربوط به همین چند روز البته اشکالاتی هم در امضا هست که این مربوط به عدم دقت خوده اله منظورم اینه که جالی نیست تو منو شدیدا نگران کردی چالی دقیقا بگو منظورت از این حرف چیه خدای من خوب گوش کنین چجوری و چه چشکلیشو نمیدونم اما دارن الان میچپن یا بدون اطلاع خودش یام که یام که چی یام که بسوف حالا کار از کجا میاد از سوئیس سوئیس بله از سویس. در حال گمان میکنم که باید یه اقدامی بکنید واقعیت اینه که من نمیتونم پلیس رو در جریان بگذارم خواهش میکنم خواهش میکنم یه کاری بکن خوب آروم باش ببینم چه میشه دنبال آدرسشون بگردیم اعت تنهایی تا اینجا بیای. از این بالا، پرچ پایین. بیا، بیا اساتو بگیر. میخواستم سنجاب بگیرم. فکر کردی دشان چیکار میکردم ها؟ فکر کردم اونجاست؟ کسی اینجا نیست من تنهام. چه حالی که تو داری؟ منم ببر خونه. اینجا خیلی صداست است مارگو. درخت، باد سنجاب و چیزایی که اسمشون رو نمیدونم. نمیدونم دور چه اتفاقی داره میفته. خیلی سر و صداست. حالا به بعد تو خونه زندانی میشی. زندانی؟ من زندانی هستم این چه حرفیه میزنی عزیزم؟ یکمی همینجا بشینه مارگو من بعضی وقتا وقتی به این درک میرسم که چقدر کم از چشام بهره بردم محشت وجودمو رو فرا میگیره من حالا میفهمم که با متخصص کتف فکری که اون وقتا بهش پوسخن میزدم تفاوت سیادی ندارم یا با کارگری که فقط ابزارشو میشنسه تخصص من شور و هنر و عشق به هنر بود و درخشان تین کشفم مارگو پیترز تو حالت خوب نیست ال نمیدونم دیگه نمیدونم حال خوب کدومه حال بد کدومه من بیهوده تلاش کردم که در اوالم کوری رنگ و بوی عرفانی به زندگی بدم بیهوده سعی کردم که خودم رو فریب بدم که زندگی فعلیم با تو شادتر و عمیقتر و پاکتر و بیهوده فکر خودم رو بر عشق و فداکاری تأثیر کسی بود ببینم تو تو دارواتو خوردی دارو دارو داروه چه درد یک زندانی میخوره که نرای پیش داره نرای پس زندانی که شعورشو احساسشو وجودشو به بازی گرفتن چشموز یکی از هر صدی انسان عبور میده. من از این همه تاریکی از این همه ظلمات چطور رایی پیدا کنم به کدوم سمت برم به کجا برم نه گوشم نه چشم نه شعورم هیچ کدوم کمکم نمیکنن خدا! توش تو معلوم حد چت شده چی داری میگی این حرفا چیه که میزنی یه تواهمی به دست دو و تو همه دنیا رو به هم نریزی و ندوزی دست بردار نیستی؟ حسن بلندشو بلندشو تو من وجب به وجب اینجا بهت نشون بده هیچ دردی بدتر از این نیست که به شور توهین بکنم. مارگو میتونم یه خواهش فقط یه خواهش ازت بکن بگو عزیزم چی میخوای؟ من از اینجا ببر ببرم بردین نه تو فعلا باید اینجا بمونی دستور صور دکتره استراحت مطلق استراحت مطلق همراه با شکنجه روحی من از اینجا میبرم ازم این شدای توی پول پول بله خودم هستم شما اینجا چی میخواین؟ پول پول من من کور شدم من همه چیز رو دیدم و شنیدم البته با همکاری معمول پولیس لطفاً بیاین جلو آقایون من از دست شما شکریت میکنم خوش درخت پنهان شد اینا حرف های خصوصی مردم گوش میدین؟ من چند روز اینجا هم و شما رو زیر نظر دارم هر شما رو پس درست پول گفتی سه نفر آره گفتی سه بله این خانوم تو و و کی کی او کیه او کیه پول الان معلوم میشه چنان ساکتی آقای مایکل ریکس گفتی مایکل ریکس؟ بله مایکل ریکس لطفاً دستگیرشون کس حق نداره کوچیک‌ترین ترازی به ما بکنه. شما هیچ دلیلی برای بازداشت ما ندارید. مخصوصاً اینکه حکمی هم نداری چرا قربان؟ اتفاقاً حکم بسیار محکمی هم داریم. با توجه به شکایتی که ایشون در رسیدگی به حقوق همسر خارجشون کردند و با توجه به تعقیب و مراقبتی که در این چند روز اخیر انجام شد و مدارکی که به دست آمده از طرف مراجع مربوطه، حکم دستگیری شما آقای مایکل رکس و خانم مارگو پیترز به تام همکاری خاصی صادر شده. چنانچه حرفی در دفاع خودتون داره میتونید در دادگاه و در بازجویی های مقدماتی ابراز کنید برداشتون رسپان بذارید آجا نبری اینشون خب عل شنیدم که میخواستی برگردی برلین بول بیا نزدیکتر بیا خواهش میکنم چیه عل بیا جلوتر کملن نزدیکتر بخواب بغلت کردم من بچشان کور می شدن تا بینا بشم بول منو ببخشید خواهش می کنم خواهش می کنم بول بریم ام. بریم الیزابیت منتظرت آوائی